هر جهان و جان تلاوت می جان جهانی را جهان در جان بیاراید همه بودن نشانی را اگر جان در میان ناشد جهان را هیچ بینامی است بگو دنیا خودش جان است و جانانی است چگویم تا جهان باشد همه جان است و این جامی است که همتای نفس بودن همه جان است و پرسانی است چرا این گونه دنیا را پدید آورد و او آن کیست چرا انسان پدید آمد چگونه او جهان رازی است به پرسش صد هزاری پرسش پرسان که تو دانی جهان در چیست و این جام جهان بر کیست ارزان پر از صد پرسش و صد گفتن بی سود این انسان که دنیا را به بودن دور و از زیدن همه دور است او پرسان ازای این چگونه چیست بودن را چرا هرسان به کام مرگ داده او نفس جان و تن و ایمان به کام مرگ در کام همه رویای خود او کیست چرا اینسان به مرگ آورد خود را و در این تن تنچیست بگو جام جهان انسان به خود دارد هزاری جان دیگر آن همه را توفه خواند او به کام خیشدن انسان بلد از ترس و مولود از دل اوها او زاید خود راسان کسان قول بربر در میان آورده دندان جان بگوید او غذا از آن من دنیا برای من همه دنیای را دستان که ترس پیش در او را به خود خانده در این بد شکلیش انسان و شاید صد هزاری راه دیگر در دلش او را چنین انگاشت که بد سیماتر از دیوان به روگشت و خودش را دیو در تنگ تنکاشت هزاران سال در راه هم از پیش هم از تکرار در پیشند و این انسان که ملکش خوانده دنیا و به مرگ جان تو خیشند به دل است او را بین که در آن خانه تاریک نگاهی برد بیرون راند و او را دید او خاریست به چوب ناتوان در پیش خود چشمی و بیند پیش در راهیست به سوی جان در بر رفت و او را خار پنداریست به ضرب جهل اول او تنش را خون به جان در خاک به خاک پشت تن زد در امانی کشت او را باک به باک و ترس من در این فساد افتادم ای وای بیا دریا این تن را بیا فرسوده را مارای به دندانی برای آسیابان روی کرد و دید که بیجا جا کشتان جان را و در سوگش به خود لرزی. شتابان هم همه سر داد آری کشتم من جان که چشمش در پی آن تن حریم من شد آوگان بکشتم خوب کردم من چنین از خاک خود تقدیر منم آن پاسبانان و آری آسیابان و دندان دلم لرزید کسی در آن حوالی نیست تا بیند که انسان جان به کام مرگ در آمد. به خونش غره شد انسان خودش را دید بر خود لعنت و آری هزاران آفرینها گفت خودش را او ستود و از دلش رختی به دور از مهرتن او خفت هزاری بار بر خود خوانده و آن چهره را او دید تکاپو و بودن های او را خواب رویا دید به گلگون چهره اش و تصویرش بر آن تصویر همه تن خود به خون دید و به خون آقشتنش رازید همه زیدن به کام مرگ بودن بود تا آنجا به غارش او برون آمد بدیدا یک تنی تن چید به تعقیب نفس جانی بود و درباد او و سنگ به پشت سر نشانده اصو همه زهر خودش را ننگ به روی و بر زمین او دید او اینسان که جانی در جهان بیداد به مرگ و در تکاپو جان دهد بیمار و او بیزار به و کینه ها او جان به جان خود نفس لرزید زمین افتاد و اشکش جاری و چهره از آن دیرین خود را دید به دیدا کشته یک تن را به چوب و درد در بیزار به مرگ او خجست بال گشتالیک جان بیمار به بست فکر در اوهام و در این کام وحمافاخ به بگفتا در کنارش گوشت خواهی تازه خونی دارما در باغ نظر بر تیر رویش دید و کشته از حالا جان تناول می کند می از خوردن به خون انسان زیادش دور او آن تن به دندان آسیابان راه در تم بود به کامش برد از خون و به سختی آن فرو درگور یکی در دست بود و کشد او در کام خاکی جان یکی در گور معده برده او اینسان به خاک انسان به خاک سر به رو آویزد و هر دم بخاند باد به خاموشی خود خواند به یاد آورده او این دار به باران و به دریا و به کوه و هر چه در هستیست نظر را دور افکنده به غعر مرگو هستیست به کام جهل شد او از جنون و هر دمی را سر سرآخر کودکش را در دل تعلیم خود اوراند براندن او به تیغ از دست هر باری به او این گفت بدر جان را بدر با این دریدن خوی کن آری پدر خوی او را ساخت این دیوانگی و جه در آن خاک دور تمدن زایشش از قلب این دیوانگی دیوانه بود او یکی را کش دیگر تن به او آموخت خون خروشیدن به او دیوانگی را کوف هر تنی در قلب این دیوانگی از خود برون با خشم که از همه دانستن آنان هرچه دانایی بدانند و خرد در رشک هرچه چه باد و خاک و طوفان سنگ آسان گفت هر چه حیوان داد کرد و آن نباتان رفت هیچ تن راه آن صدا در آن میانه نیست هیچ از آن قلب فریاد هزاران رای را نشنید نیست دیگر آن صدا هر چه صدا در پیش آید چیست جز ندای بر فریاد همه دانندگی در این میانه کیست هیچ را در دل شبگردی آنان به راهی نیست کس همه راهی به دوران دار راهی برده در این زیست باز خواندند و کسی فریاد آنان را شنیده سنگ سنگ با صد داد فریاد شکی او را به خود در چنگ سنگ شادان روی برباد و بباران گفت او شنید این صدا از جای خود آشفت تا به شادی در میان سنگ راهی بود آریدید او تراشیدن بدیده قلب خود را چید دید سنگی را به تخت شاه در پیشند به ترس خود نیایی را پرسیده به دین کیشند سنگ تصویر خودش را دید در آن کام بدرویی و اینسان خام او به کام خیش مالک خانده را غی کرده آباد از آن جام زبانش بست او ساکت خموش و دیگر او هیچ است جهان بیکرانی او خودش را خوانده از پیش است خود دگر هیچ و جهان در روی او بیش است جمع انسان در برابر خاک و سجده در چنین کیش است سنگ مسکوت از این جهل و انسان هیچ در پی مرگ است او هردم به کام خیش و فوج،, فوج این آدمان بهره همان سنگند هیچن از او صدا را ناشنیده در پی جنگند جنگین این ازم و در پی هردم دم از این آفاق در پی آن ذره بر كراو و در این دولت از اشاخ یا به خاکند و پی ایمان خود در پیش یا به ازم ساختن یزدان دیگر روی هم در بیش یک به یک اجسام و اجرام و همه دنیای را اینان برای کوته و کوچک شمردن خار هر تن در دلا ایشان کستنی در در آن قلب آسان آستان خورشید بوی قدسی میتراود هر تنی در شم خود او اینچنین چرخید دام پردازان از این وهم و از این آلودگی در وجد یک به یک را در دل آن تن فری با خورده از تن سنگ سنگ دیرین بوت بر این معبد به کام هر تنی در کیش صد هزاری مرد با هم هم و همراز و آن همریش. باد دید و درد دریا در دلش قرید فریاد است روتها جاری به این مسکوت ماندن درد بیداد است هرچه از تویان از بودن به این زیدن در آنان بود مرگ بر کام و به جهل شاد آنان خانده این برپود تار و پود این نسان را او غلام و وای حوریدا. ارتنی را خورد در این نوجوانی جان جانی دا بر دل تحقیر خود را فز او سیل دگر را کشت نه تیخی داشت لیکن با همه کوچک شمردن خار کرد رشت. رشد از او را غنیمت روز در روز دگر پیش است حالو او افضل دیگر مردمان آری همو خیش است دربر آن بر که با هر راهداری روی در نیشه است و زیباتر کمال فضل دنیا از همو خیش است یک به یک سلطان و یزدان و خدا ارباب این دنیاست، شاه از شاه دگر والد خدا در پیش روی آنهاست خاک خاکش در پیش و همه تن هرچه در پیشان بگو قدسیست هرچه در روی و به کام من بگو آن شهد ما سمیست زهر نوشان به روی کام او بل آن تن خار بخاری از خودش او شاه را شادان از این انکار مکر دادار از دلش او زاده هر تن را در این حیران به کام خود چنین بلعد به شادی مست او انسان آمد از غار و به سنگا او تراشیدا هزاران تار از ایمان همان رای از دلش خاند بزشتی تنش در خونان دیوان یکا یک را به صرف خیشتن او خاند هر دم روی که کامش را پر از جهل و جنون بر تیرش افزود تو به این طریقت زشتیارا برتری را پیش به و از من آ باشا قبیل من در این بدکیش یکا یک محترم بشمار هر تن را خدای ناب برای زیستن در این جهانا باید آپرتا به خاک پاک پای آن خدا بر سرمه ای در چش برای طاعتش ریختن به خون هرتنی پرخش خودش را او جلاویز چنین بازی بدمستان به کام این جنون خود را فریبی داد او ترسان خودش را او فرید و خود در این بازی مهیا شد برای خیشتن او در چنین بدتینتی را او پذیرا شد به تخت دور چشمانش بدوزد هر تنی پرترس بخاند روز فردای خودش را دید او پربزم که هرچه تخت شاهی و خدایی و تنی در روی همه از آن او باشد همه دنیای باشد او به او در این دیوانگی ها مند و آن دیوانه شد او خودش را خان در این جهل و با این وحن همخانه خانه شد یکا یک دربرش بر او شمارند این چنین را رای تو مالک و ملک جهانت پیش تن برسا امر کن فرمان تو فرمان بران بسیار در میزد فوج بسیاری برای ترس او در خیشتن خیزت آن یکی در دورتن راهی تو را او چید ترس جانت را به قوهایی به دیگر راه ها را دید دیده ای او را و این چین را به کام خیش برکن و برخان و بر جایش نشان کن تینت بدکیش چین را از انتقام و آستن هر تن خودش را دید خود شد و از آن شد و این گونه بادی آسمان لرزید با هم تنهایی بسیار باد و هرچه در دنیاست هر هرچه جان از بهر این دیوانگی لرزان و او تنهاست هیچ تن را خوش نیامد از چنین دیوانگی و جهل آری را لیکن او جپ رو به فرمان خانده خود را هر تنی از شاه باز است و به تحمیل و همه مرگ تن از آزاد مرگ هر تن را درستی از پی آزادی و بست همه بیداد شاه سلطان شد خدا بر این زمین انسان بخاند راست هر چه می بگوید هر تنی را اوس در آن ساز ساز خشکو به کار و خاند آرام از دلش انسان به کام من در آیود. خود به کام من در چنین آسان به دستش سنگ بود و باز در پیش دلش جانی به زخم سنگ او دردابورید و سرز انسانی یکی را کشت تا او را نثار شاه باشد در چنین فانی دگر تن را بکشته با همان سنگ است ارزان سنگ پیشین را خموش و خوش به بادی او بهرویشدید باد بر چنگال انسان بود آری او ز خود ترسید از دل رعد و به قلب آسمان در خود به خود پیچید من از این دور و دگر بازا نیایم در دل این زیسآن بدزید سنگ ها در دست و چوبان در بر روی است حمله از جمع نسان آنها به دنبال نفس کوی است آن هوا را که فریاد و بدور از این نسان جوی است مرگ می به جای زندگی این مرگ از خوی است به سرکوبنده و با چوبی که در جان دیگر رخشید، مرگ را خوانده به ماه و انتهاری گشت آن خورشید، و مصیبت هر دم از دمهای دیگر می تراود مرگ، مرگ را اینان پرستیدند و در این مرگ پیشه بردن جنگ در دل غر زمین و بر دل آن کوه، او چنین جز سایکی از تیر روزان روی جای آهن را برون داد و یکی را کشت هر چه میسازد برای این چنین مرگ است او را کشت کشت هر سان هر تنین انسان و آهن دید خود لرزید داد زد فریاد کرد و آسمان را او به خود درید در آسمان چشمان خود را بست و بدین سان آدمی فریاد کرد آهن و سر با همه دنیای را بیمار کرد هر تنی آیات بر گوشش بخاند و یک به یک را خاند وش از نو تکرار و به تکرارش بخواند و مر را او راند پود براندن در میان سیل جانها هر تنی را دید زتیغ تیزو کشت و نفسها را بکین او چید یکی را کشت چون او را به خوردن میل آری داشت یکی را کشته چون او زشتن بود و بدنمایی کاشت تندگر را او درید و خاند او ترده است مرتد از باورنها ایمان ما او زشتن مرده. آن تن دیگر به تیغ تیز و رخصید، سر زندامش برید و خان این شعر عبس را چید باید او کشتن به قربانی برای شاه شاهان شاد، او مقامش را به تنفیز منا در این جهان او او همه دنیا به و داد از داد همو آزاد زاد و بیزاد و همه نازاد گر او این چنین و زاد. هر هرچه محمل ناگهان دیدی که بیسان از شمارش روی در رویند دیده ای فرمان مرگ و مر کشتن هر تن به جان پویند دیده ای گردن بریدن سهل و آسان تیر روزی کشت دیدهای ای فکری میان نیستند باید همه تن را به تن آن کشت کشتن ارباب جهان از دور و دور دستان خود او خواند باید از کشتن گذر در این جهان و کشتن از کشتار ما او شاد شاد و شادان از چنین دد سیرتی و مرد ملک خود را او پرستیدن به کام جنگ هرچه در پیش است و هرچه او پدید از این جهان آورد، از ذل این آفریدن مرگ را او حکمتی برخیشتن پر کرد جنگ در پیکار جنگ دیگری در خیشتن فریاد باز بر پیش و بخوان بر جنگ دیگر جنگ ها ازداد هر تمدن خوانده یک دیوانگی را از په جهل دگر با کوش. هر تنی آید بخاند آن حدیث زشتیت را رو آن همه حافظ شده در این چنین کام جنون و جر که از یکی منشه هزاری زش رویی آفرید قر چینه هرسان سان می تراود. او شکوفه میزند در دشت دشت جهل این خرابان از همین خاند خودش را خشم خش میسازد یکی از راه دیگر راه را ایمان دین دیگر میخرابد از جنون دیگری بر جان هر تنی خاند یکی در در دیگر آن صدای زور زور میخواند همه دم از برای کشتن تنگور عارفان هزیانگران و شاعران و کاسبان این چنین آن آلمان، صنعتگران و خالقان هر تنی از علم اینان کس همه جهل و جنون خوانده است میتراود بهر هرچه او به دیرین آن زمان گفته است میشنید و شادمان هردم به تکرارش چنین خوانده است من همه چیز جهان دانم، به قدرت مست او هر دست است هر چه از فرهنگ و از دانش به عرفان و تمدن بود یک به یک در کام آن جهل سترور خانها بر رو کوش ترسان جان آنان را به این کشار خود دانا کرد زهر از آز و حماقت خواند آنها را در این دیوانگی ها نای کرد باز در پی پیش این جهل قدیمین روز پر پربکشای او تراود مست و شادان از این جهل خودت زیبا از دل آهن به سرب و از دل آن سرب یک تندید بوم دیدا و دیدی با کل جهان لرزید می تراود هر دمی از جهل آری جنگ های ناب هر تنی در این جنون خوانده است اینسان او به های تاب با دلش با خون و با جانش همه دنیای را ویرانه دید بازید و این جنون را در دل این خانه دید دید هر تن در دل این ست جنون و کاسید دید و پرسان در پی بیدارین را رای دید به باد و در خفا او گوش تنجان بود به سنگ در حماقت مانده از انسان همو سرخ و به تابان نور در آن آسمان خورشید جان را گفت بر دل آن ماه او از تارکی و هرچه زیبایی جهان را گفت دید آن تنجان زیبا را و آن اشجر به زیبا زنده است دید و از او او شنید و درد بودن را که تن بیننده است از دل مهر همه حیوان به جان خود همه جانهای دید به جان خود درید و جان خود را او دوباره جان خود آزاد زید به جا از پیشی و بیشی و در آن پیشتن رو را که بی آمد در بر دیگر نفس او از دلش برپا. به مغز و در دل اینسان خرد او هرچه تیر روزیا را راست به حسر این خرد اینسان به کام مرگ آری هر تنی برخواست هرچه بودا کستنی دور از دل اینسان پلیدی راه او شنید و شادمان فریاد راهی جستم من راه داد زن در قلب معبر او هواری شادمان خوانده است پیش آید ای نفس جان دارگان در پیش من جان است من جهان جان بدیدم جان من آری جهان را دید جان بدیدم این چنین آزادی جان و جهان رخشید احترامی را که از آن این چنین آزادگی بر پای برخیزد من بدیدم نعش در این سام و سامان را به پا خیزد خیز در و بخاند و او همه افسل به کهتر خواندن را کاست داد فریادش برابر بودنی بودا که ایشان خواست باد او را هم صدا آواز تندی او به رو تند آف. خاند بر هر تن که پیش آی و بدن هستند رهایی را فزان باد تندر دریاب طوفان خاند و آرام در دل دنیا نفس چرخید آسکینه دور بادا انتقامان محف از این تیر روزی دید بیشماران از دل جانان به پا فریاد گردان رود ما همه با هم جدا این تیر روزی را چه باشد سو. ما بخوان یک تن همه همجان و از هم کیش راه ما را یک بخان راه همه ما در دل هم خیش راه را این جام جسته که از دلش فریاد خانده هر دمی هر دمی خانده است این جان را تلاوت جان ما بیش از کمی جرب ایمان و رهایی و به این بنده بلندی باد را ما چنین فریاد دنیا دار بر دنیای دادار است جا. بشنو این فریاد جا و جان دنیا است پاش، بشنو از آن دیر بازان دور دستی داده فریاد هستنا. من هزاری خواندم و او خام در این دورماندن راه خیش، حال فریاد بلندش را بگو با خود بخوان از راه پیش. جان به فریاد و به تقیان او تو را خوانده است پیش او تو را فریاد آورده است در انسان رزم خیش او تو را میخواند و بر آرمان این جهان آرمان شهر تو را او این چنین پنداش جان جان همه دنیا همه زیدن همه تن جان بوده است بر دلش انسان جهیدن آسمان ها را خوش است آسمان در پیش و این خاک و همه جام جهان در دل ما پیش آید که از جهانم دل خوش است این چنین شادان هزار هزاران تن به پیش آمده در پیش فریادی رساندا بهره بیش بهر دریابیدن و دریافتن در این سرای، بهر بودن در کنار یار و در جان و بپاش بهر اینسان خواندن از جان هر چه معنا دار آن خوانده او یک تن برابر جان هر تن جان من. دیده ای از این چنین فریاد آزادی نشان احترامی که از همه معنای آن ای شاد من باستن صدها هزاران در دل معبر به پیش در دل تقیان برای این چنین بودن تو بیش باز فریاد و به ارزش صد هزاری راه ساخت از دل فریاد خود او آن جهان را داشت کاشت باز در پیش استو زایش صد هزار آزاد زاد زادمان روز و بدین بودن هزار آزاد با باد از چنگال زشتی اوره ها در پیش بود هر تنی را خاند از این بودن و آری کیش بود او به کیش او از قلب جان در بیش بود او به بیداری صدای آنچه دریا خیش بود هرچه دریا خاند خورشید و جهان تکرار کرد هرچه دریا خواند خورشید و جهان تکرار کرد جام بگفت و اشر و سنگ و همه فریاد کرد لب گشوده سنگ از اینسان جهان بیدار جان شادمان دگر آن سنگ دیرین نیست پای لب بر این بیداری بسیار از سیل نسان تکرار کرد هرچه او گفت و دگر گفتند را این جام انسان ناب کرد او دیگر آن دوردستان جان بدزی نیست جان او همه همجان دیگر جان دنیا بود آن شادمانانه همه در این چنین رویای زید آن همه رویای خود را در دل این جام و این دنیا کشید او کشید و صد به تکرار همه نقشش هزاری راه دید آن هزاران تن به صحف اول تغییر در این جام دنیا او رسید حال دنیا را دگرگون و جهان دیگری در پیش باد باید از فریاد این جام جهان را پیش زاد سادگاهش قلب این دنیا به بیداری است جان او به بیداری جهان دیگری را بستان زان همه فریاد بیداری و اینسان راهدار این جهان در پیش باید خواندنش را پیش داد دست در دستان و فریاد بلندی آسمان جام دنیا را به تغییر جهان از خیش جان. هر تنی فریاد آن رویای خود را پیش کرد. هر تنی از بحر رویای خودش درگیر کرد. آرزوها را به هم در پیشتن فریاد بود. هر تن از آن اوج در آن ساختن برداد بود. داد خود را او به فریادی بلند ها جار کرد جار کرد راه خود را او طریقت باز کرد جان چنین والا و با ارزش چه تن والای زید هر تنی بر جان خود رخشید و او را آفرید باز دنیا بین که اینسان هرچه تغییر است پیش با توان ما چنین دنیا دگرگون باد پیش. با هم و یک دل به فریاد بلندی خان جان با سازم این جهان را با دل و این خش جان جان من در پیش از بحر همه تغییر پیش باید آ این جام را سازم بدین سانعزم بیش من نفریاد همه جان جهانی نست خان من به دوری خان و این فریاد را از جان بدان این چنین فریاد دنیا و همه از جان به پیش این چنین دنیا به زیبایی رود او راه بیش حال دنیا آن همه جان جهان در پیش رو چشم دوزد بر دل و بر جان و بر اندام او او توی آن تن تویی که از قلب تو فریاد راد این جهان را آن همه تغییر در پیش استا کتاب رویا، اثر نیما احسواری، فصل اول دنیای سبز دیر بازان من را به نابودی سپردیم و از آن هیچ باقی نگذاشتیم تا زندگی بر ما ارزانی دارد. دنیا نخوص سرخ شد و در خون خود برخیشتن و جانان جهان گریست. لیک آدمیان برام بودند تا باز به ارزش های خود ساخته شان پیش روند و بنگونه شد که جهان را سیاهی فرا گرفت. آسمان تیره و تار گشت و دیگر خورشید بر روی ما نتابید. اون نیز کلافه شده بود. او هم از این دنیای دیوانه وار به تنگ آمده و شنیدم که در شبی خیشتن را کشت تا آسوده بخوابد. آسمان تیره و تار بیان که آفتاب بر آن طلوع کند چه غمناک. بود. ماه کمسوب و بیتوان به جای مانده بود. آخر آدمیان به ماه سفر بردند و او را دست و پابسته بر جای نهادند. او را به حس کشیدند و مالکانه بر او تاختند تا برانان به تابد. و حال ماه را هر بار می دیدم که با توانی تحلیل رفته و جانی بیرمق بر جای خشک مانده است و او را توانی برای رفتن و دور ماندن نیست. آدمیان او را محکوم بهماندن کردند تا بر دنیایشان بتابد و یگانه نور باقی مانده بر جهانشان باشد. هرچند برای ما هم نقشههای بسیار کشیده بودند. شنیده بودم که میخواهند در آیندهای نچندان دور او را تکه تکه کنند و از اجسام او ابزار تازهی بسازند. آنان تنها به انتظار آن بودند تا بتوانند ماه تازهی خلق کنند. و جایگزین او کنند و پس از مطمئن شدن از ساختن نور تازه به سر اسیرشان آن بیاورند که آرزو کردند. آنان به سر خیال ساختن خورشید داشتند. ابنای بشر تا آنجا خیشتن را پیش میدید که هر ناممکنی را خلق خوند. او بران بود تا ماه را دوباره بیافریند. خورشید را دوباره آفریند و ها را بارور کند. او میخواست تا آنچه از دورتری خوانده بود را به جهانیان ثابت کند. شاید در آن دوربازان هزارین نام قدرت بر دیگران نهاد و نتوانست وجود آنان را بر دیگران به اثبات رساند. اما از آن روز که خیشتن را یگان قدرت دنیا خاند بران شد تا بر این ادعای خیش سه گذارد و آن را به تمام جهانیان به اثبات رساند و امروز روز اثبات مدعای او بود. حال دوران پروردگاری او به جهان بود، حال زمانه بود که انسان خالق یکتای جهان نامیده میشد و هر نکرده ای به کرده ای بدل میساخت. او هر موجود در دنیا را ناجود کرد تا دوباره بیافریند و این بار به همگان بفهماند که خالق جهان خیشتن است. دنیای آلوده آدمیان جای زیستن نبود، تنها جای کار کردن بود. معنای زیستن را از خاطر برده بودند. جز معدود شمارانی که بر تخت حکومتها نشستند و خدایی کردند، دیگران محکوم خوانده شدند و باید آن می کردند که اربابان امر فرمودند. و اینگونه بود که مدام در فلاکت آدمیان قوته خوردند و معنای زیستن را از خاطر بردند. اگر از کسی درباره شادی می پرسیدی، از آن هیچ به خاطر نداشت اگر از او در باب عاطفه پرسیدی برایش غریبه بود اما تا هر آنچه در اختیار داشتی می توانستی از آنان پیرامون ابزار بپرسی پیرامون پیشرفت ماشین ها سوال کنی در باب فناوری و برتری به خانی و بی شمار از آنان بودند که دوباره به کار درآیند و آن کنند که اربابان فرا خاندند. در این روزگاران برخی از آنان را برگماشتند تا بر کار ماشینها نظارت کنند تعدادشان بیش بود دنیای را ماشینهای های فرا گرفته بود و بی پیاپی میساخت تولید میکرد ابزار برون میداد و جهان را احاطه میکرد در کنار آنان بودند بسیاری از آدمیان که در حصار بنشسته باید از صبح تا شام فکر میکردند باید راه می ساختند. باید ابزار به وجود می آوردن. باید راه تازه‌ای برای رسیدن به امیال می و آنان محکومان به فکر کردن برای ساختن خطاب شدند به دنیایی که آدمیان خیشتان آن را پرورندند بودند آنانی که زندگی از دیگران رو و خیشتن زندگی کردند هرچند که آنان هرچی از عاطفه و مهر بود را از خود دور کردند و در آنان هیچ از مهر باقی نماند لیک آنچه لذات زندگی بود را به آغوش گرفتند و از آن بهره جستند به دنیایی که همه چیز را از نومی آفرید والان شینان و مالکان بران شدند تا لذت بیشتر برند پس آنان که فکر می در اتاقهای محبوس از شام تا سهر و از سهر تا شام ایده پرداختند تا ابزاری برای لذت آنان آفرینند و انگاه بود که کارگران ساختند و سرآخرش والانشینی به تخت از ابزار ساخته لذتی برد که تا کنون آدمی از هیچ به دنیا نبرده بود. انگاه فاتحانه برخواست و به بالکن برجش در طبقه صدم رفت و فریاد که شام به همگان خواند، انسان خالق یکتای جهانیان است. به زیر پای او در میان شهرها بودند، بیشمارانی که در تمنای قطره آبی به جان هم بیفتند. آب را نیز انسان باید که میساخت، ساخت. ساخته بود. آب شور را تصفیه کرده بود. از فازلا پا به تمیز برون داده بود. از دل کوه هرچه آب معدنی بود را استخراج کرد. او والاتر از آن رفت و آب آفرید. لیک آب معدود بود. به طول این عمر کرای انسان هرچه آب بود را از میان برد. گاه به دیوانگی به خون رنگینش کرد. گاه به آز مصرفش کرد. دیگر آبی برای همگان وجود نداشت. و هر که از آب باقی مانده بود و یا توان به ساختنش در انسان بود برای آنان که از والانشینان بودند فرست میشد می شود. پس از آن به آنانی دادند که شبان روز فکر میکردند و تهمانده ها را به کارگران سپردند. هاجان جان برای ساختن داشته باشند اما شهرهای آنان فراتر از آنچه چه کارگران، متفکران و والانشینان بود بیشمارانی داشت که هیچ نداشتند آنان را آلودگان خطاب می کردند در این وانفسای دنیا گاه آنان را به تیغ می سپردند تا بر آنان آزمایش های تازه کنند گاه انسان را به ابر انسان بدل سازند گاه به آنان نیروی ماورا عطا کنند، گاه آنان را به یاد گذشتگان به پرواز درآورند. دندان تیز و چنگال بران به او ببخشند و گاه برای از میان بردن امراض به تنشان سم زدند و تکان خوردنشان را در کف و خون به نظاره نشستند تا شاید راه چارهای برای درمان دردها بجویند برای درمان دردهای والان شینان. بر آنان آزمون کردند تا بدانند چگونه میتوان عمر آدمی را چندین برابر کرد کردند و این گونه به آزمون بسیار به مرگ هزاران و در سوگ انسان آدمی چندین برابر عمر کرد صد ساله شد و به صد سالگی جوان پنداشته شد آدمی هرچه میخواست را به دست گرفت و از خود کرد و این گونه به آنچه در سر پرورانده بود جامعه عمل پوشاند به زیر برج صدها طبقه از اشراف آنان که آلودگان خطاب می شدند به جان هم لول خوردند. برای آب یکدیگر را دریدند. در میان آشخالها برای تصاحب غذا صورت یکدیگر را پاره کردند. زباله همه دنیای آدمیان را فرا گرفته بود. همه چیز را به خود دفع کرده بود و حال انسانهای والانشین آلودگان را بران داشتند تا از زباله های آنان بخورند و بیاشامند. گاه شیشه های نوشیدنی آنان را به کام بردند گاه از ظروف پلاستیکی آنان خوردند و گاه از زباله شیمیایی نوشیدند سرفه می کردند. خون بالا می گلوهای پارهشان در برابر دیدگانشان بود و در این ظلمت جان می و باز خالقان بر آنان نگاه پردند و به هم خواندند. که برای از میان بردن این آلودگی از زباله‌ها باید که آلودگان بیشتری آفرید آنان را آفریده بودند شاید پرورانده بودند شاید به اسارت خانده بودند شاید از ماشین ها طلب کردند و شاید ابنای تازه‌ای پدید آوردند تا تنها خدمتگذار آنان شود آنان را آفریدند تا به اربابان خیش پاسخ خویند با جان و تن به راه او و پیشرفتش خدمت کنند و اینگونه بود که آلودگان باز پیش رفتند و آن کردند که اربابان فراخوانده بودند جنگ ها به بمب های نامرعی و مرعی به پیش می رفت می رفت و شهرها را در چش برهم زدنی از میان می برد آدمی زاده دیروز با تمام اغده ها و کینه ها با هرچه از انتقام ها مخته بود با هرچه از قدرت به خیش خانده بود حال باز هم به مانند گذشتگان برای دریدن دندان تیز می کرد و در انتظار می نشست خیشتن را مالک رودخانه ای میان دو کشور خواند و فریاد زنان و اربدکشان کشان بومبها را به روی شهر برابر ریخت آنان را به خاک و خون برد و انگاه که پی رفت تا دریاچه را صاحب شود دید که خون آنان دریاچه را خون کرده است دستور داد تا آب را آلودگان بنوشند و سیراب شوند و آنان که از مدتها بی آب مانده بودند خون را خوردند و دریده تر شدند. تا باز به فرمان او این بار برای تصاحب زنی در دورده است پشت چشم نازو کردنی از خانان و دهان به دهان گذاشتن با کودکی از صاحب بنسبان آلودگان به پیش خوانده شوند تا این بار گوشت تن همسایگان را بدرند و فرمان روایی پادشاهان را به رخ دیگران بکشانند. در زمین سرد و خاموش هیچ از جان به جای نمانده بود. جانان جهان را به دوربازی در سلاخی از میان بردند و همه را منقرض کردند. تا یگانگی دوباره فرمانروای عالمیان گردد. تنها نام انسان به جای ماند و آدمیان یگانه جهان شوند. آنان که خیشتن را آفرینندگان جهان می دیدند بران شدند تا به هر هرچه نسل از جانداران جهان است بیافرینند و در این آفریدنها جهان تازه ای را بیالایند. به میان شهران چه از درخت بود را از میان بردند و به جای آن آهنی پدید آوردند که گازهای سمی را به خود می و هوا به آنان باسپس می داد. دیگر درختی نبود تا زندگی بخشد، و ماشین های ساخته به دستان بشر آن خواست بکند که درخت کرده بود لیک در ساختن آنان هزاری مشکل پدید آمد در رقابت به ساختن این جانبخش برخی آنی ساختند که گازها را به طبیعت بازگرداند و نفس از نفس آنان رو بود آنچه ساخته بودند تا هوا را تصفیه کند درست کار نکرد و دوباره سم به جهان بخشید درخت های آهنین ساخته به دستان بشری به هوایی که باران خاص سوخت و بر زمین ریخت و با زبالات آهن جهان را پر کرد به جای نفس پخشی ماشین نیپدید آمد تا دوباره هرچه از نفس بر جهان باقی بود را به کام خیش ببلد پس آنان که از والان شینان بودند ماسکایی برو زدند تا نفس نیز ارزانی بر آنان باشد و دیگران آنچه از سم و کسافاته است را استشمام کنند دیگر جانی نبود تا بدرند و از گوشت و خونش ببلند پس بران شدند تا جانی پدید آورند برای دریدن آنچه گوشتش خونش خوش هم از دیگران بود او را پدید آوردند و با خلقش به انتظار بارور شدنش نشستند آنگاه که بارور شد او را سلاخی کردند و از گوشتش خوردند برخی از آلودگان را به دنیای دور از آنچه آلودگی بود پروراندن تا به دورگاهی او را سلاخی کنند و گوشت های خون آلود را برای بی همتایان زمین بفرستند تا از جان آنان بدرند و سیر شوند. آفرینندگان زمین همه چیز را آفریدند و هر باز آفرینی بیان که آنان بخواهد را آلودگان خطاب کردند. به ژن‌های برتری دست یافتند تا از آن تولید مثل کنند تا آنان داران این آفرینندگان تازه شوند آنان که ورای این ژن برتر بودند را آلودگان خطاب کردند که باید تنها از جان برای پیش بردن جهان به دست آفرینندگان تلاش میکردند باید آنان به پیش میرفتند تا دنیای آنان را بسازند از جان میگذشتند به کام از زباله آنان فرو می تا به زیر خانه های آنان زباله باقی نماند و جهانشان به این آشخال ساخته به دستشان مدفون نشود. به زیر برچ های آنان بود که کسی از آفرینندگان ظرف نوشیدنی خود را به زمین انداخت و انگاه یکی از آلودگان فرا شد تا در چشم برهم زدنی آنچه سرور فرا خانده است را ببلعد و در کوتاه زمانی جان دهد جنازهش تبدیل به سوختی برای سوخت سوزاندن گردد تا ماشین های ساخته به افکار والانشینان بهتر از پیش کار کنند آفرینندگان وزیفه ها را یک به یک فرا خواندند آنان که از آلودگان بودند تنها جانی برای تقدیم بر آنان داشتند و آنان را که خیشتن می آفرینند از هرچه جان و بیجان جهان بود؟ از انسان ساخته به دنیایشان تا ماشین ها همه را ابزار دیدند و بر آنان خواندند تا آن کنید که فرمان بر روی شما خوانده است. ساعت‌های شهرها کوک شد تا به ساعتی خاص هر که را آنان آفریده‌اند به خواب روند. آنان به خواب رفتند و آنگاه که نیروی تازه را جستند بر آنان خوانده شدند تا کار کنند تا آنچه از ابزار است را پدید آورند. تولیدات ساخته شد و آنان که خلق خوانده شدند به خلق کردن پرداختند همه روز از صبح تا شامی که ساعت آوایی برای خوابیدن کرد کار کردند و بی خواست تنها آنچه وظیفه به دوششان بود را عملی ساختند آنان ساختند و آنگاه که از ساختن فارغ آمدند با شنیدن صدای کوک زنگ ها به خواب رفتند تا دوباره به صدای زنگی برخیزند و دوباره کار کنند یکی از آنان که ژن خوشیداش فریاد زد باید بیشتر کار کنند این خوابیدن آنها نشانی از تنبلی بر جان آنان است ما برای ساختن آنچه خورشید نام نهاده ایم برای ساختن ماه تازه و برای ساختن زمینی دوباره نیاز به کار کردن بیشتر آنان داریم پس جمعی از آلودگان را به پیش فراخاند و بر آنان هزاری آزمایشات کرد تا سرآخرش دارویی پدید آورد که همه نیرو را به آنان بازگرداند و بیان که نیاز به خوابیدن بود کار کنند و دوباره همه چیز را چنان آنان دستور دادند بسازند. در میان این ساختنها و در میان این آزمایش ها چندی از آلودگان مرد و وزیفه را که به جان در خدمت خالقان بود عملی ساخت تا به سراخر اشتباره تولید کنند بیوقفه بسازند و همه چیز را باز آفرینند. هر چیز که در دور دست به جهان زنده بود و به آنان زندگی ارزانی داد در این دنیای وانفسای انسانی هرچی از مهر و زیستن بود به فراموشی سپرده شد از آن هیچ باقی نماند تا کسی مبادا هوای زندگی بسر کند آنان برای زیستن به دنیا نیامدند و به آنان خانده شد برای ساختن پا به جهان گذاشته اید. شعارها یک به یک برایشان خانده شد و آنان را واده تا دوباره کار کنند. کارگران به داروی خورده بیان که این بار ساعت صدایی به تراود نخابیدند و نه استراحت کردند. تنها کار کردند تا بسازند و دوباره همه چیز را از سر گیرند. و این گونه بود که جهان آدمیان پر از آنچه ساخته بودند شد. همه جای جهان را ابزارهای بیشمار فرا گرفت ابزارهایی که دیگر بلااستفاده استفاده بود مثلا آنان در دیربازی اسبابی برای خوابیدن ساختند حال دوباره به این ساختنها ادامه دادند بیان که کسی در دنیا نیازی به خواب کند هرچه ساختند بر هم, هم باشته شد دنیا را بیشتر از آن که کسی برای مصرف آن زیسته باشد سازندگان فرا گرفتند هرکس به کشورش تفکر کرد که مصرف کنندگان به دورتری از آنان زیستند. آنان ساختند تا در همان دور دست از آن چه آنان ساختند بهره برند. اما بیان که بدانند ساختند و دیدند کسی را طالب ساخته هایشان نیست و اینگونه بود. اینگونه بود که به هزاری ابزار که خیش ساختند غرق ماندند و در آن نفس از خیشتند رو بودند. زمین مدام سرفه می کرد نفسی برای ادامه نداشت یار دیرینش آن ستاره عظیم چندی پیش خود را کشته بود و با نداهای آخرش مدام به گوش زمین می که خیشتن را از میان ببرد لیک زمین که مادر اینان بود با آن چه از مهر به جانش باقی بود نتوانست استان کند که دیگر هیچ از آنان به دنیا باقی نماند مدام برای دیگران به ماه و خورشید میخواند که آنان روزی به خیش خواهند آمد و دوباره زیستن را به یاد خواهند آورد زمین مدام تصویر دورتری را به یاد میآورد آنجا که زمین سبز بود آنجا که برتنش جانهای بسیار میزیستند مدام خاطراتش را به یاد آورد و به یاد آن روزگاران عشق میریخت و جانش بیشتر از پیش خورده شد یاد آورد در روزگارانی پیشتر که جانان جهان به سبزی تنشگاه می نهادند، آن که خورشید به رویشان چهره می گستراند، آنجای که درختان با شکوه و آنان نفس می میدادند، بر علفهای سبز مادر می نشستند و آنجایی بود که به آغوش کشیدن یکدیگر مهر را به جان ارزانی میبخشیدند. آنجا بود که به بوسه هایی بر صورت یکدیگر زندگی میکردند، آنجا بود که به آغوش کشیدن جانی زندگی می آموختند و وای که آنجا بود به یاد می را هیچ کدام از آدمیان به خاطر نداشتند. هیچ از آن روزگار برایشان به جای نماند و همه دنیایشان را پیشرفتی به ساختن و ابزار داشتن تصویر کرد. زمین نالان حال تمام جانش راهن و سرب فرا گرفته بود. حال سبزیش به تیرگی بدل شده بود. جای که نفس به جانش دمیده شود سم بود که از هر سوی به نهایش نواخته شد. بومب ها یک به یک تنش را خورد و درون رفت. بومب ها هر کدام تراوتی داشتند. گاه به آتش سوزاندند و تنش را به درون خوردند و به هستش رسیدند. گاه به سمی او را آب کردند و در خود وانهادند. گاه باتری مسموم، صدای صدای ها جانش را خراشید و به اندرون برد و هر بار به بمبی در خود سوخت و خاک سر شد. برتنش در ازای هرچه از جان بود آهم پتی شد. ماشین به میان آمد و همه جا را صنعتی به حرس انسان فرا گرفت. ابزاری ساختن تا او را در آسمان نگاه دارند. آخر او از این منظومه هم کلافه شده بود. میخواستا به دور دستری رود اما برای مهار او نیز دستار پدیدار کردند، تا چون ماه که به بند در آمده بود، زمین را نیز به آهنی در بند کشند و به حسر برند. زمین به تنش زخمای بسیار داشت که همه از خالق شدن انسان پدید آمد و هرچه از دور گفت را به خیشتنش تعبیر کرد. و این گونه بود که هر بار بیشتر در سکوت مرگ باری فرو رفت و دوباره با مرگ هماغوش شد در دل آدمیان بودند آنانی که ساخته شدند تا بجویند آنانی که در طلب زندگی زیستند آنان را به دار مجازات درآویزند و به همگان بخوانند که ارتداد در برابر آنچه خاصه خالقانه است چه سرنوشتی خواهد داشت ماشین جستجوگر جوگر بران شدند تا در هر گوشه پرسه زنند و هرچه از زندگی است را ویران کنند دیدند که مادری کودکش را به آغوش کشیده است او از آلودگان بود او در خفا کودکی را به نزد خیش خانده بود میخواست تا به مهر با او باشد و از او جان تازهی گیرد این گونه بود که با هر بوسه اشکی به زمین ریخت از اشک چشمانش زمین نیز به یاد آورد دوردستانی را که مادران از ابنای هر چه جان در جهان بود از حیوان تا گیاه از انسان تا ماه همه و همه به آغوش مهر درآمیختند و اشک ریختند اشک چشمان او به جانش رو سوخ گرد و هر بار بسیار از جانان جهان را در خیش او دید و ماشین‌های جوگران را دیدند و چش بر زدنی آنان را دست و پابسته بردند تا در برابر آفرینندگان نشان دهند آنانی را که اسیانگران دنیا نام داشتند پیشفا فرمان داد تا آنان را به دست دستگاه دور دستانشان بسپارند آنچه آدمی ساخت تا از او کسی را پدید آورد که خالق خوانده بود کودک و مادر را به درون دستگاه سپردند و در کوتاه زمانی به تکانهای شدید آندو دو ماشین تازه پدید آمدند ماشینی که باید بارور ور میشد و هر بار بر زمین کشت دیگری خانده میشد. و ماشینی که با چند گام در درون ابزارهای انسان جهیدن به فردا بدل به ماشینی برای جستجوی مهر برمیآمد و دوباره نظم حاکم را به پیش می بود. زمین میدید و از دیدن این دردهای مداوم به خون گریست در خیشماند و در خود آرزوی مرگ کرد چند بار نام خورشید را فریاد زد و از او خواست تا او را به آتشش بسوزاند. از یاد برده بود که دیگر از خورشید ذره‌ای نیز به جهان باقی نیست. دانست که آدمیان در تدارک و پدید آوردن آنچه خورشید نامیدند برآمده‌اند. دید بیشمار از آنان که با سینه ای افرا بر خود میبالند که خالقان حقیقین دنیا همانانند. به پیش می روند و آنگاه بود که خورشید تازه را که به آهن گداخته و سرب آتشی میسوخت در آسمان نهادند او بر جای ماند آتش سد هرچه از زمین و آسمان بود آدمیان دانستند که آنچه آفریدند به مانند خیشتنشان بهر نابودی به پیش آمده است اما او را جای دادند و بر این آفریدنها بالیدند زمین همان گونه که آرام میسوخت میدید. که جنگ تازه آدمیان از برای خورشید تازه برامده است آنان که این خورشید تازه را آفریدند قوای زمین را به دست گرفتند و او را به هست درآوردند و اینگونه هماره خورشید را از آن خیش کردند اگرگاهی نیاز برام بود تا از خورشید دور شوند که آنچه ساختند پرورانده شود خورشید را دور کردند و زمین را میچرخاندند و اینگونه بود که باز زمین دید آدمیان برای تصاحب به رشک به جان هم افتادند بمب‌های تازه به روی هم میریزند دوباره یک کایک را به آتش میکشند و آنکه بیشتر آد در آتش سوخته است جان پردرد زمین است که از داشتن چنین جانی در خیش به تنگ آمده فریاد مرگ مداوم سر میدهد دوباره آتش و خون و جنگ به میان بود آلودگان را در برابر نشان دهند تا به جانشان آنان را در امان دارند و آنگاه دوباره پس از آن که بیشمار آلودگان به مرگ رفتند بومپای خیش را به سوی دشمنان بتازند و باز آلودگانی در دوردستی تومه حریخ شوند نتوانند نفس بکشند و در هزار بیماری جان دهند. چرخش دوار آنان و تواف دیوانگیشان مدام تکشار شد و هر بار به طریقتی همه را سوزاند و زمینی به جای ماند که در اکساد و زباله ها، در بومب ها و بیماری ها، در بیجانی و بیمهری، در بیاتفگی و خشونت، در حسادت و کینه، در انتقام و برتری، در یگانگی و قدرت، در رنج و درد، دف شد و سوخت و خاکستر شد. زمین مدام اشک میریخت، فریاد میزد، ناله سر میداد، از جانان جهان طالب بیدار شدن بود، برایشان از دنیای نابود شدهشان می گفت از دنیای که آنان را به نابودی همگان خواهد برد و انسان محض شده هیچ از آنچه او گفت نشنید و دوباره مالکانه به جهان چشم دوخت دوباره باید می ساخت و می آفرید. او در این جنون به ساختن دوباره ساخت و دوباره پروراند تا بیشتر در این اکساد ساختش در جنون غرق شود و دفن بماند روزگاری به پیش می رفت که از آلودگان هیچ به دنیای باقی نماند آنان را نیز منقرض کردند آنان را نیز به تباهی بردند آنان که گاه به مهر چشم دوختند نیز محکوم به نابودی شدند و تنها از همه جانان جهان قشری به جای ماند که ژن خوب و هوش مصنوعی داشت صاحب بود و فرمانده خطاب می شد آفریدگار خداوند بود او بود که همه چیز از ماشین تا جان و خورشید را پدید آورده بود او بود که دو پای عبزار ساز لقب گرفت او بود که مالکانه به دنیا چشم رفت و حال دنیایی بود که تنها او در آن باقی ماند آنچه از کارگران و متفکران بود را نخست تومه برخیش کرد آنان را واداشت تا بسازند در خویشتن نمانند و دوباره بوم پای قدرتمندتری پدید آورند آنان را به بردگی واداش و بر آنان تاخت تا آنقدر کار کردند که بیجان جان بر جای ماندند و قلبشان بازی استاد بر آن بود تا بران ابزارها بی افزایت. تا ابزارها و ماشینها را به پیش برد روبات های تازه بیافرینند که همه کار بکنند که صدها برابر به انسان کار کنند و پیش برند آنان را به آخرین روزهای زیستن کارگران ساختند و به جای خود نشاندند آنان دوباره ساختند و فرمان بردند آنچه به آنان دستور خوانده شد را به پیش بردند و دوباره جنگ ها سر گرفت تا خالقان به یک تایی همه چیز را صاحب شوند آنکه قدرت بیشتری داشت دیگران را از بی برد و آنقدر بر یکدیگر آتش و بوم بفکندند تا سراخر شکی از آن هزاران اقوام به جای ماند و همه چیز را صاحب شوند تنها خالقانی به جای ماندند که قدرتمندترین جهانیان لقب گرفتند آنجا بود که آنان به نام فاتحان به زمینی چشم دوختند که هیچ از زندگی در آن به جایی نمانده بود و همه چیز نیستی و نابودی بود در آن دنیا و به تکاپوی یگانگی آنان بران شدند تا در میان جنهای خوب و حوشهای برتر آنان که کهتر خانده شدند را به بند گیرند تا دوباره دنیا را بسازند آنان را به بند درآوردند و دستور دادند تا برخی فکر کنند و برخی کارگری پیشه کنند و دوباره جهان را تکرار کنند به نظم کهن خیش این بار خالقان فرمان به خلق زندگی میدادند درخت میخواستند حیوان برای کشتن و زندگی که ادامه یابد خورشید ساخته به دستانشان بیشتر می سوزند و بیشتر به پیش میراند باری کسی از آنان به پیش آمد و خواند که باید خورشید تازه‌ای بنا کنند و برخی را به این کار گمارد. آنقدر همه را دوباره به کار گماردند تا سرآخرش از آنان نیز هیچ تنباغی نماند و همه در مرگ گوته خوردند و به کام رنج رفتند. آتش خورشید ساخته به دستانشان هر بار قدرتمندتر میشد. نیز علتی بر مرگ بیشماران گشت و دوباره خالقان در میان خود که احتران را جستند و آنان را به بردگی گماشتند. آنقدر این سیر دوار گذشت و تکرار شد تا سرآخرش کسی باقی نماند و چند تن از آن قدرتمندان خالقان و مالکان در برابر یکدیگر دیگر کنند و دوباره نجوا یگانگی در آسمان و زمین گوشها را کر کند و آنان را به خیش فرا بخواند آنگاه بود که به هزاری زشتی درون که همه از یگانگی و صاحب بودن از برتری و چینه از قدرت و انتقام سرچشمه می گرفت بران شد تا آنان یکا یک را بدرند و تکه پاره کنند. در میانشان خون جاری شد و سرآخرش برترینشان به جهان ماند و یکتا یالم شد. آنگاه به فراز جهان رفت و بر زمین و آسمان و خورشید خود ساخته و ماه دربند خدای دیربازان و خدای امروز انسان مرده و انسان از میان رفته تمام جانان جهان که منقرض شدند و هرچه در دنیا از دیرباز تا کنون بود خواند. من یگانه دنیا خدای جهان و پروردگار آلمیانم آنجای آنچه او در تمام این سالها ساخته بود را پدیدار کرد و در دنیایی که هیچ از آن باقی نمانده بود زمین آرزوی مرگ می کرد. ماه در بند در شرف مردم بود خورشید ساخته به دست بشر هر لحظه به زمین نزدیکتر می شد و هیچ از زندگی و جان باقی نمانده بود دست بر دکمهی برد و با فشردنش حاله او را در برگرفت. حال با شکوه و نورانی که دور تا دور او را در حبابی نگاه می داشت. او به این تصویر بر خویش بالید و آنگاه آنچه ساخته بود عمل کرد و بمب منفجر شد. بمبی عظیم و بزرگ والاتر از آنچه تا کنون آدمی ساخته بود و بر آن میبالید. قدرتی فراخ که هرچه قدرت در جهان است به پایش سجده خواهند بود. برتری وصف نشدنی که همه از آن او بود. جنی پرزور و هزاران ساله که انتقام همه دنیا را میگرفت و انسان بود که جنون آدمی به فشردن دجمهی دنیای را پایان داد و در چشم بر زدنی همه دنیا ویران شد. خورشید، ماه، آسمان، زمین، حیوان، انبات، انسان، جان و گیتی همه و همه از بین رفت و نابود شد. و هیچ از دنیا باقی نماند کتاب رؤیا اثر نیما سواری فصل دوم آینده 100 ساله بشریت و جهان ساخته به دستان او آنقدر احتمالات غریب و داشت که هر بار کسی نقش آن تصویر را در برابر دیدگان عموم نمایان کند و همگان آن را تصدیق کنند. هر بار کسی تصویری از دورنمای آینده زندگی تصویر می و کسی را یارای اعتراض در برابر آن نبود. زیرا که به دنیای حال آدمیان آن کردند که آیندهی به مراتب زهشتر از آنچه دیگران تصویر میکردند قابل وقوع بود. و می توانست از کابوس های آنان نیز وحشتناک تر شود هرکس کس که تصویری از آینده آدمیان و جهان پیرامونشان به واسطه ی کردار های آنان تصویر کرد با دیگران نقطه مشترک داشت و آن پایان جهان به دست این دو پای خود شیفته بود همه تصویرهایشان را در کنار هم نقش دادند تا به انسان بخوانند که این طریقت زیستن شمایان با چنین ارزش ما را به تباهی و نابودی همه جانداران، زمین و آسمان و حتی ابنای خودمان خواهد کشاند. آنان می دیدند که دنیای حال آدمیان چگونه است، می دیدند که چگونه بر همه چیز خیشتن را مالک می دانند و حق زیستن از همه را در اختیار خیش گرفته و آنان را به مرگ فرا می خانند. می دیدند که دنیا را به جبر و تحمیل واداشتند و همه را در حس و اسارت خیش تصویر می‌کنند همگان این تصویر انسان را دیدند و هر آیندهای بر آنان برابر با نابودی همه جانداران جهان بود شاید باریانان همه چیز را به تسخیر در می‌آوردند و آنگاه در زباله‌های خود دفن می‌شدند شاید به ساختن عبر ابزاری، هوش مصنوعی و ماشینی عجیب و غولاسای دنیای را به آنان میباختند شاید به نابودی درختان و گیاهان نفس بخش نفس از خود میرو بودند و آخر شام به زندگی همه خاتمه میدادند شاید به دست رازی در جهان خورشید را به خیش نزدیک میکردند و جهنم زمین را میسوزاند شاید به ابزارهای ساخته در زیر چرخهای پولادینش خرد و نابود میشدند شاید به از میان بردن جانان آنقدر صبو بودند که سرآخر به جنگی گیر همه را در رشک و خودخواهی میسوزاندند و خیشتن میسوختند هر تصویر که به آینده آدمیان به دیدن حالشان تصویر شد چیزی جز نابودی در آن نبود و انسان دید که به واسطه آنچه از دور بازان به خیشتن کشانده و دنیایی که در این دیوانگی بنا کرده است به سرآخر خیشتن جهان را نابود خواهد کرد اما مگر به دنیای حالشان چه بود که چنین آیندهی برای آنان تصویر شد؟ آنان به داشتن قدرت و بودن در جهان همه چیز را مالک شده بودند و زیستن را از خاطر بردند. آنان دیگر از زندگی هیچ نمی جز به برتری در آمدن و بر دیگران امر کردن. اینگونه بود که هر روز به تحمیل و جبر در آمدند و جزی از آنان شدند و دنیای را در این مالک ها به یغما بردند. انسان روزگار کنون خیش را میدید و به دیدنش آیندهی بران تصویر می کرد. می دید که چگونه آب را مالک شدند و هر جا آب در زمین بود را صاحبانه به کام خیش فرو بردند. دید که چگونه زندگی از دیگران بردند تا خیشتن زندگی کنند و دید که در دور زمانی بر سر آب یک را تکه و پاره خواهند کرد. آریانان هر روز به تصویرهای در برابر به جهان کنون دیدند که آینده آنان چه خواهد بود؟ دیدند که چگونه برای سود و منفعت خیشان همه جانداران را لگدمال می کنند؟ برای استخراج نفت و مرگ درد به جان دریاها مینگارند. زمین را لگدمال مال می کنند. همه جا را به ظهال آغشته و مدفوم کردند و سرآخر بر جنازه‌های های بسیار از آن چه منابع در جهان است، سوت خواهند بود دنیا را به قفسی بدل کردند تا همه در آن آن کنند که برتری والانشینان را حاصل شود بر سر تکی کاغذی که خود ساختند و از جانشان هم معتبرتر شد به جان هم در افتادند و یکدیگر را تکه و پاره کردند گاه به ترس از نداشتن و فقر تن دیگران را به زیر دندان دریدند و از لاشه بی جان او بر زمین کام گرفتند از سن خونین بسیار تنان کام بردند و به لاشه هایشان هم رحم نکردند و از خون و جنازه هایشان تناول کردند. در این قفص بیشمار را به حسار درآوردند تا از صبح به شام کار کنند و هیچ از زندگی خیش ندانند. نه بخانند، نه ببینند، نه لذت برند، نه آشق شوند، نه به آغوش درآیند، نه محبت بنشانند، نه به مهر خلوت کنند و نه هیچ از زیستن بیاموزند تنها کار کنند و سازه های قول خانان جهان را بسازند و برای آنان تاج به هربار هر بار انسان دید که با دنیای پیرامون خیش چه کرده و چه آینده ای در کمین اوست. او دید که چگونه هر که قدرتش بیش باشد فرمان روای عالمیان است انسان دید که اگر قدرت از آن کسی باشد که هجاب را پسندیده است همه را به جعب در حجاب خواهند کرد و تحمیر را فرا خواهند خواند تا آن کند که آنان امر فرمودند انسان دید که اگر قدرت به کام آنانی در که حجاب را نف کردند چگونه حجاب از سر دیگران برخواهند کند دید که چگونه آنان که حجاب داشتند را به مدارس، دانشگاه ها به سر کارهای دولتی و هزاری موقعیات را نخواهند داد و باز تحمیر را به پیش فرا خواهند خواند تا آن کند که آنان آرزو کردند انسان دید که هر کدام از آدمیان که به میدان آمده خیشتن را به هر دری خواهد سپر تا به نهایش قدرت را به کام گیرد و آنگاه فرمان به آنچه آرزو کرده است خواهد داد انسان دید که تحمیل به همه جا حکم فرماست دید که اگر به کشوری نگاهی اقتصادی را نکوهیدند و آنان را پس می شمارند در برابر کشوری خواهد بود که نگاه برابر را لند کند و هرچه آنان به تحمیل کردند آن دیگران نیز به تحمیل فرا بخانند. دیدند که چگونه اگر به مملکت آنان از آن نگاه و طبقه کسی را به حکومت راه نیست در برابر به کشور مخالفان از آنان راه نخواهد داد تا حکومت را به کام خیش برند. انسان هر بار دید و دانه است که این آدمیان آمده تا به قدرت همه چیز را به تحمیل و جور بر دیگران بخانند و آنکه قدرتش بیشه است، به نهایش همه چیز را دارا خواهد شد او را صاحب خواهند خواند و به هرچه لذت است دست خواهد یافت آدمی هربار بار دید و بیشتر دانست چه آیندهی ای به این دنیای ساخته به دستانش در کمین آنان است هر بار دید و شناخت انسان را که از برای چه به پیش آمده از زور بازان و خدمت را بهانه که آخر قدرت را به آغوش کشد منگونه بود که آدمیان دنیای حالشان را دیدند و باس خواندند که ای به نابودی در کمین همه ی آدمیان میدیدند که هر بار باوری در گوشه گوشه دنیا سر برآورده و پس از آنگاه که قدرت را به خدمت گرفت به جبر همه را بر سر آن خواهد سایاند و بر همگان حکومت خواهد کرد آنان این بازی دیربازان را از خیلی دورترها دیده بودند و آن را می شناختند و اینگونه بود که دوباره آن را به چشم دیدند و هر بار حرکتش را به زیر استخانها و در میان رک به نظاره نشستند. بازی همان بازی دیربازان بود. لیک گاه اسباب بازی تغییر می کرد. شاید به دیربازی به تیغ و خون باید که آدمیان را به جب در خود می و حال به گفته ها به تکرار به در فرو بردنها، به همرنگ کردنها، به فراخان بر ذهنهای در تکرار به مردمک های کوری که همه چیز را بر دیدگانشان تصویر کردند باید آنان را هم کرد و با آنان همراه شد تا به آخری در جبر آن کنند که آنان فرمودند باز تحمیل و جبر به راه بود و باز قدرت این بار به تصویری تازه و در لباسی نو همان کرد که صاحبان امر کردند و جبر به پیش رفت تا بیشمارانی را به زیر پای خود برای پرستیدن و خیشتن را به تحقیر نمایاندن تسلیم کند دنیا دنیای دیوانواری بود آدمیان مهر را به دور انداخته و از آن هیچ به یاد نمیآوردند. آوردند و اینگونه بود که مردمان به خیالهایشان باور داشتند که تا چندی دیگر هیچ از این مهرهای مخفی شده به دل نیز باقی نخواهد ماند آنقدر آنان در این سبویت و دیوانگی اوته خورده بودند که به راحتی هرچی از مهره است را از یاد برند و خیشتن را به دستان ماشین های ساخته بشری بسپارند آنان رفتند تا به آغوش شاهن منزل کنند مهر را تشبیه کنند و دوباره بیافرینند آن نیز به کام سود و برای جیب های در انتظار مانده است صاحبان انسان دید و باز شناخت که آیندهای دردناک در انتظار اوست. انسان دید و به این سبویت خود ترسید که چه آیندهی ای از تلاش او دنیا را فرا خواهد گرفت دنیا ازشتی آدمیان به جریان بود و آنان دیدند که چگونه همه چیز را از یاد بردند رنج کشیدن حیوانات را فراموش کردند و از آن ارزش دیرباز آنقدر به ذهنهایشان رسوخ کرده تا خیشن را مالک و این حق را برای خیش بپندارند که هر چه خواهند پا جان دیگر جانداران بکنند آنان دیدند که چگونه در سلاخ خانه ها سرستن حیوان می دریدند آنان دیدند و اینگونه بود که برای فراموشی از نگاه آنان دیگر کسی ندید دیگر به نهان سربریدند، بر آنان را آموختند تا تنها بخورند و آنچه در برابر است را مصرف کنند. بر آنان حرجی نبود که از کجا تأمین شده است. از کجا به کام آنان رفته است و باید هرچه چه در برابر بود را مصرف انسان انسانی نگاه را دید و دانست که به فردای از آنچه جان جهان است هیچ به دنیا باقی نخواهد ماند. انسان دید که اگر از رنج دیدن جانی در جهان غطری مهر به دلها بیدار خواهد یشت و این جامعه سبویت را برخواهند کند دیگر ندیدند و دیگر بر دیگران نشان ندادند تصویر به بیدردی بردند و باز جعبه ها برایشان نمایان کرد تا به دنبال کودکان جانان گردند و از آن بخورند که تعم حقیقی نخون در آن نهفته است انسان دید و باز مصرف کرد دید که در ویترین های شهر در میان نور و چراخ های فراغ در میان آرایه های ای و در میان تصاویر رنگارنگ گاه آلوده به شهفت در میان سینه های زنی زیبا و خوشپوش گاه در میان دستان مردی کشیده و جذاب پوستی از سن جانان جهان پوشانده شده است دیدند و دانستند که باید مصرف کنند دیگر تصویری از بریده شدن سرها به میاننم. و بودند که در کارخانه ها برای آن تکیه از پوست حیوانات کار کردند بیان که حتی یک بار صدای نالهی بشنوند و بیان که خون و جانی در بند را به نظاره بنشینند تنها ساختند و آنگاه مصرف کردند اشباه شدگان آنچه دیگران خواستند ببینند ندیدند و باز به مصرف شدن فرا خوانده شدند باید مصرف می کردند. گاه جنازه درختان که به دست دیوانگان و جانکاهان جهان بریده شده بود و گاه تن خونین حیوانی که بدل به لباسی فراخ شد آنان تنها به امر در پیش عمل کردند و آن جان جانبخش را به آتش سوزاندن تا گرم شوند. نه نیاز به سوزاندن از برای گرم شدن نبود پس به جسمی درآوردند. و آن سوار شدند تا هرچه امر برای پیش بردن بود را به چشم و گوش فراگیرند و آن کنند که امر در خیش است تکه های کاغذ ساخته به دستانشان هر بار به دستی هم شد و او را بیشتر فرمان رواخاند بیشتر در برابرش کرنش کردند و با آنچه به دست آورده بود دوباره بیشتر کسب کرد و آخرش دیدن که بیشمارانی را هیچ نصیب از آنچه ساختن نیست و آنکه در تمام روزها به اتاق نشسته است بیان که کار کند همه چیز را به تصاحب برده و خورده است آنان که به جب در کار بودند هر بار حقیرتر خوانده شدند هر بار از لذتی محروم ماندند هر بار به دانستان غریبه شدند هر بار به کار غرق ماندند تا بیشتر بر آنان بتازند و آنان را حقیران جهان خطاب کنند آنگاه آنان که صاحبان جهان بودند بر آنان تاختند و آنان را بیمایگان خطاب کردند و چندی نگذشت که خیشتنشان نیست به کهتری خود ایمان آوردند و والانشینان را بزرگ جهان خطاب کردند و تنها آرزویشان رسیدند به آنچه جاه و مقام آنان بود شد به جان هم افتادند یکدیگر را دریدند و آنکه بیشتر از همه در این دریدن لذت برد همان والانشین دیرترها بود همان بود که به جب هر چه آنان کردن را به کام خیش برد و به حلقش فرو ریخت همان بود که از کرده آنان هر بار بارورتر شد و از جنگ آنان بیشتری نصیبش شد آنان را خموش کرد و خیشتن را به سلامت به در برد تا آنان به جان هم بیفتند و اگر این بازی قربانی خواست به دست خیشتن از خیشتنشان قربانی شود دنیای حال آدمیان دنیای از دیوانگی و قدرت تا جبر و خودخواستنها بود هیچ از دنیای برایشان مهم خوانده نشد مگر به سود و منفعت خیش هیچ برایشان ارزشی نبود جز چه برای آنان سود بخش بود ذره ذره مه را به دل همگان کشتند و گردن زدند ذره زر زران چه از ابزار بود را بر آنان حاکم کردند و ذره ذره بود که به تحمیل بر همه خواندند آن کنید که ما امر کرده ایم و این بار آنان را به بندی درآوردند که همه چیز از خیشتن را به باد فراموشی بسپارند. آدمیان دیدند که با آنان چه شده است. چه به روزگارشان آمده است و چه در آینده در کمین آنان است. آنان دیدند که به جب کسی پیروز خواهد شد. کسی که قدرت بیشتر را به اختیار و در خدمت خود درآورده است پیروز خواهد بود پس می که آینده در اختیار قدرتمندان است همانگونه که از دیرباز در اختیار آنان بود و این بار هر کس به قرعه قدرت را به دست یکی از طایفه صاحبان داد و با آن قدرت در تسخیر تصویری از آیندهی به تباهی همگان نشاند فراخان دیگر از دنیای آنان بی ارزش کردن هر چه ارزش نامداش بود و بر آن بران تا همه چیز را بی ارزش خطاب کنند تا ارزش را از میان برند و به واسطه از میان بردن آنچه ارزش و اخلاق است هیچ از دنیای باقی نگذارند و همه چیز را به باد فراموشی بسپارند انسان دید که چگونه در سطح واماند و به هر چیز که به پایش ریختند رخصید انسان هر بار دید که چگونه او را از آنچه حقیقت است دور می کنند و هر بار به فرعی فرا می خانند. هر بار او را در منجلا انداختند که گاه به تفریح و گاه به لذت، گاه به فراموشی و گاه به نخوت، آنچه ارزش و اخلاقه است را نابود و فنا می کنند. انسان دید که چگونه بی بندوباری را ترویج کردند، دید که چگونه هرچه عرضش خانده این را به تمسخر بردند و از آدمیان آنی ساختند که هیچ ارزشی بر جهانشان نباشد و آنگاه که بی باور و ایمان شدند به سادگی به حزم خواهند رفت به سادگی بلیده خواهند شد و آنچه برایشان ساختند تحرک خواهند کرد آدمیان هر بار می که خریدن و فروختن همگان به امری معمول در آمده است اگر کسی تنش را فروخت، اگر کسی جانش را به میانه گذاشت اگر کسی شرافت و اخلاقش را معامله کرد همه با هم خواندند که معمولترین اتفاقات به دنیایشان رقم خورده است انگاه بود که آنان بی اخلاق و ارزش، بی ایمان و باور، بی آرمان و آینده ای امید هرچه برایشان تدارک دیدند را به پیش بردند و از هیچ ناراحت و خشبی نشدند اگر جماعتی برای احقاق حقوقش به خیابان بود باید که آنان را عبله خطاب می باید دوباره برایشان از خیشتنشان می از بهره بردن بر دیگران از دنیای همارهشان می تا آنان بدانند هران کس برای تغییر و برای نیک کامی دیگران به میدان است نادان و کاهل است برایشان مدام تکرار شد و هر بار در بی ارزشی و زندگی به سطح خوته خوردند همه ی دنیایشان فرو رفت در آنچه نیاز به دنیایی بود در فراهم آوردن آنچه از احتیاجات دنیا بود و صاحبان دانستند با درگیر کردن آنان به دنیایی از احتیاجات و صرف شدن و صرف کردن به دنیای از در خواهند ماند و آن خواهند کرد که آنان فرمودند این بار زور به نزدیکی تزویر بود و با او هم دست می آنچه سروران خانده بودند این بار آنان امر کردند و اینگونه بود که همگان فرا شدند تا مصرف کنند تا در احتیاجاتشان صرف شوند و هر بار بلای بردن به آغوش کسی درآمدند، به آغوش هزاری در آمدند با شهفتان کردند که افسار گسیخته و دیوان وار خوند با آنچه صاحبان خواندند هر بار به دنیای ست و در نیاز واماندند و فراتر از آن به هرچه اخلاق ایمان باور و اعتقاد بود پشت پا زدند تا در برابر آینه خیشتن را حقیر بپندارند و با ناخداگاه دیگر از خیش هیچ انتظار نکنند فرای فراخاندن به سطح و در حسار نیازها به مصرف شدن و صرف کردنها برخی را فراخاندند تا در برتری و رقابت یکدیگر را تکه و پاره کنند. آنان را فراخاندن تا به هزاری عناوین از رقابتها درآیند و برای تکه پاره کردن همسر پا نشناسند به آنان خواندند که گانگی حق شماست شما را باید که بر برتری جاه داد و برای این برتر شدن به آنان جایگاه و منزلت دادند گاه در برابرشان آنانی که برتر شده بودند را تصویر کردند و گاه به گوشهایشان از آیندههای رویایی در کمین خواندند و بود که بسیاری را در این رقابت خودخوانده فرا خواندند و از شدنشان هم درس صبویت و دوری از مهر به دیگران فهماندند همانان را به یگانگی دعوت کردند و برابری را به کردارشان در همگان کشتند و همانچه چه تمثیل از قهرمان برای دیگران بود را به قهرمان ازان خیش بدل کردند تا برای خیش آن کند که آرزو کرده است آنجا که فرا خوانده شد تا به سطح و نیازهایش درآید، آنجا که به ابزاری بدل شود تا شرانی را به این مصرف شدن و صرف کردن بدل کند و همه را به دنیای نیاز فرا بخواند، تا مبادا کسی به دنیای واقع و آنچه در جهان گذرد نظری کند بر فرمانروا لبیک گفت و آن کرد که آرزو کردند. جهان آدمیان به رقابت و در تصاحب قدرت در پیش بود و کسی نمی‌دانست سرآخرش کدام تایفه قدرت را به کنیزی خواهد برد. کسی نمی اما حدس ها و گوانه ها بیشتر بود. بیشتر آنان را صاحبان فردا می خاندن که تکه بر انسان و انسان پرستی می بیشماران دوره قدرت های را رو به نابودی می و دوره آنان را تمام شده فرض می کردند. اما این بار آنان که انسان را مرتبتی قدسی عطا کردن صاحبان فردا خوانده شدند و با این ترویج ارزش‌های از دنیای آنان بود که بیشتر دنیا به سوی آنان می رفت. بیشتر برای آنان هموار بود و بیشتر آنان را فرمان روای عالمیان خطاب میکرد در این دوران دیدن‌ها و شنیدن‌ها همه می‌خواستند قدرت را به دست گیرند و همگان را به جبر بر فرمان خیش بنشانند در دور بازانیانان که قدرت دیگری را علم کردند، فرمانروایی به دست بردند و دنیای را به دیوانگی واگذاشتند و حال دنیا در انتظار انسان و انسان پرستان جهان بود. ارزشهایی به, به بی اخلاقی به بی و خاموش خواندن مهر در جهان پیشرفت و آینده را ساخت. آینده در خیال و به واقع را رقم زد تا جان از جهان بال زند و دورتر شود و هر بار نطفهی تازه شکیرد و جهان را به سوی خود فرا بخواند. جان بی ارزشترین جهان خوانده شد ارزش در بی ارزشی خلاصه می شد مثلا برتر بودن یکی از ارزش بزرگ دنیای آنان بود پیشرفتی که برای خیشتن است در گام نخست تنها خیشتن را فرا خواهد خاند که ارزش دنیا یا آنان همانا خیشتنشان است. بیشتر از هرچه در جهان آمده و هست تو باید به خیشتن بیاندیشی و برای خیشتنت آن کنی که آرزو داری. در شرایطی بک در میان آنان شاید نجوایی به همشهریان دادند و یا هموطنان را خواندند و هم نجادان را ارج نهادند. فرزانه آنان به ابنایش خواند و انسان را خطاب کرد لیک عوامشان هماره خیشتن را فریاد کرد به دنیایی که در طول تمام سالیان بودنش به طول حضور انسانها در آن، هماره قدرتمندی به خیش فرا و به مدد از آن قدرت جبر و تحمیل را بر همگان فرا است دوباره به تکرار همان راه ادامه می و به پیش می رف. دوباره میرفت تا همگان را گذشتگان را بپیمایند و همه را به جبر به دور میزی بینشانند که خیشتنان را تدارک دیده و فرمان بنشستن در دور آن دادند دوباره همان قصه های تکراری در شرف فقوع بود لیک با توانی بیشتر در اختیار آدمیان در آن دیر بازان که دیوانگان به تخت قدرت مینشستند توانی محدود در اختیارشان بود که به همان توان می و غارت می گردند. آنان گاه با شمشیر و گاه به تبر در برابر دیگران می ایستادند. گاه به منجنیق و گاه به تیر و کمان شهرها را می‌گشودند و حال در اختیار آنان توانی است که می‌تواند در چش برهم زدنی دنیای را نابود کند. دوباره همان راه سابق با همان دیوانگی های انسان، لیک به توانی بی و نحنا محدود به قدرتی بی حد و حس که دهشت به دنیای آنان نشانده است چه به روز آدمیان آینده جهان خواهد آمد؟ هر بار تصویری نقش زده شد و آیندهی در نابودی تصویر کرد که انسان هولناک و حال هولناکتر از پیش به ساختن ابزارهای بیشمار شده است صدها باور به زیستن در میان آنان بود که هر بار به جبر دیگری به گوشه فرا خوانده شد. به گوشه رفت که قدرت نداشت و به جبر در حس ماند و با کشینه از این در دل به انتقام برآمد تا روزی که قدرت در اختیارش رسید. آنجا که قدرت به کام و در فرمانش بود هر که در برابرش ایستاد را به تیغ تیست سپرد و خیشتن را صاحب خواند و به جبر بر همه فرمان داد تا آن کنند که او آرزو کرده است این دوار میچرخید و هر بار تایفهی قدرت را به دست می گرفت و به جبر همه را به خواندن باور خیش فرا میخواند. حمر می و اطاعت از آن به دوش همگان بود ناطاعتی از او جزات آشگاه سوزانده شد و گاه به دار آویخته شد هرچه شد تکرار همان پیشترها بود بیان که باری کسی سر برآورد و بخواند که همگان حق زیستن خواهند داشت بیان که کسی بخواند باید که آنان را محق به زیستن در باور خود دانست اما هیچ برای زیستن دیگران و احقاق حقوق آنان به پیش نرفت اگر دیربازان بود که آنقدر خیشتن مشکل داشت و در نابودی بود که باید خیش را در میافت و یا آنقدر به یاد انتقام بود که به هر روزنه ای تیغ کیم دست گیرد و در برابر قدرتمندان بیستد به دنیای دوربازان کسی به احقاق حقوق دیگران و برای به حق پنداشتن همگان برنخواست تنها فریاد یگانگی و حقانیت خود سر و حال به دنیای امروز نیز چون گذشتگان همگان برآمدند تا مثال دوربازان آن کنند که دیگران کردند آن کنند تا از نمد در برابر کلاهی برای خیش بسازند و آن کلاه به تاج بدل شده را در برابر هزاری به فرمان فرا بخانند و باز کسی از دیگران نخواهد خواند ورایان در جهان امروز که همه فرا خوانده شدند به خیشتن را دریافتند و برای خود زیستن چه انتظار محال از اینان. آنان فرا خانده شدن تا در لذات و صرف شدن به نیاز دست و پا زنند و هربار برایشان از این ارزش خوانده شده است و در چنین دنیایی نمیتوان توقع داشت که کسی برای احقاق حقوق دیگری آن هم نه از خون و نژاد، نه از خانواده و همشهری، نه هم و از باوری به دوردستان دستان و شاید فراتر از آن از جانی در جهان دفاع کند. دفاع کردند. به میدان آمدند و برایش به گلوله نشستند اما آنجا که باید صدایی به گوش میرسید و بیشماران را برای این تغییر فرامی آنان را به گلولهی در زور خاموش کردند به بدنامی در تزویر نهان کردند و به باج و خراج در زر خزان کردند فرای هر که فریاد زد هر که به تقیان دلبست در برابر ناعدالتی و زور ایستاد صدایی قالب به گوش می رسید. در اختیار که در دنیای ساخته برایش روزی می خوردند، از آن لذت می بردند و هیچ برای آموختن و فکر کردن نداشتند. هیچ برای انجام دادن و ایمان داشتن نداشتند و دوباره مصرف شدند برای آنان که او را به صرف شدن خواستند. تا مبادا روزی در برابر زورگویان و قدرتمندان بیستند و حق خیش و دیگران را طلب کنند فرای نجواهای در برابر ظلم که بسیار فریاد زدند هیچ کسی ریشه ها را در نیافت و هربار به جنگ با ساقه ها و برگ ها رفت لیک آن ریشه هزار توی هر باری سری برون کرد و بیشمارانی را به قهدگاه و مسلخ سپر دنیای حال آدمیان است که هر بار در بیمهری و بیارزش شدن بیشتر غرق می شود و بیشتر به خاموشی فرا میخواند. دنیایی است که در آن بیشمارانی قدرت را به چنگ در آوردند و به مانند پیشینیان و به آموختن از آنان به زر و تزویر برای داشتن زور از جانشان می گذرند. دنیا از آن صاحبان است همان صاحبان که از روز نحوس آدمیان بودند و هر بار به طریقتی جبر را فرا خواندند تا همه چیز را از آن خود کنند و حال در این دنیای امروز هم برانند تا همه چیز را مالک شوند و صاحبانه با قدرت در اختیار بر همگان امر کنند و هر از لذات و دنیاست را شادمانانه صاحب شوند آرزو کنند و آرزوهایشان یگان آرزوی جهان شود به دنیایی که همه تکرار پیش درهاست انسان نیرومندتر از دیروز شده است قدرت بیشتری را به چنگال آورده و حال این دیو بدخوی و بدسیرت در شرف نابودی همه دنیاست بی که خیش بخواهد لیک به این خودپرستی و خودخواهی ها سرآخر همه را به نابودی خواهد کشاند تصویری که از دنیای امروز در برابر دیدگان همگان نقش بسته جماعتی است که به مسخ در و هر بار آنی می کنند که به آنان امر شده است. گاه آنان را در تفرجی به خلوت می فرستند و گاه با فراخاندن از کذبی آنان را در رقابتی خودساخته پیروز می تا برای مدتی خاموش شوند. هر کردهی می کنند تا آنچه به چنگ آوردند را در اختیار نگاه دارند. تفاوت نیست که در آینده ای دور و نزدیک چه کسانی است چه تایفهی قدرت را قبضه کنند بیشک که هماره برای تصاحب آنچه چه است، انسان به واسطه آنچه آموخته است چنگ و دندان نشان خواهد داد و آنجا بیارزش است که چه کسی بر تخت نشسته باشد ارزش آنجاست که آنان بیشک فرای آنکه به چه اندیشیده و چه باوری دارند همه را به بند در خواهند آورد و همه را فرمان به جبری فرا خواهند خاند و به تحمیل به آنان امری خواهند رساند که خیشتن آرزو کردن هر که به فردا به تخت بنشیند و قدرت را غبز کند بیان که چه گفته و به چه ایمان داشته حتی اگر از جان خانده و بیکران به برابری فرا خوانده است حتی اگر در برابر اسارت ساده و هماره از آزادی گفته است همه را به نابودی خواهد بود چرا که این احساسات از خودخواهی و خودپرستی تا قدرت و برتری خاصه ی انسان است با او و با او پرورانده شده است و باید که به مهارش همت کرد باید که در برابر این احساس ایساد و او را به بند کشید و راه حل منطقی برایش داشت نه ابلهانه در انتظار درمان خیشتن شد و آرزو کرد که ما به فرجی دور از این احساسات شویم آینده انسان تباهی دیگران است این خودخواهی و زوب شدن در قدرت باعث تباهی همگان خواهد شد هرچه تصویر کردند و هرچه بران نشان دادند همه همین را نشان داد و به ما فهماند که آینده بشر به دستان خود با تکرار آنچه گذشتگان کردند چیزی جز نابودی همگان به بار نخواهد داشت. آنقدر خواندن آنان از دنیای کنون در وصول که سالیان وقت تا را آن به نص را ورد. برای آیندهشان آنقدر می‌توان تصویر ساخت و بر آن بال و پر نشان داد که هرچه چه کتاب تاکنون نگاهشتند را دربرگیرد و از آنان بیش باشد لیک بالاتر از آنچه تصویر کنون دنیاست است و آنچه دنیا در آینده به همین راه خواهد رفت چاره‌ای است که باید از آن گفت و بران خواند تا آن بیشماران که خاموش کردند که در خواب نگاه داشته و هر بار به افزونی سر کردند بیدار شوند و به میدان آیند که تغییر به بیداری همگان و با هم بودن میسر خواهد شد کتاب رویا اثر نیما سواری فصل سوم مردمانی که دنیای انسان در زشتی مانده خیش را دیدند از آن پس بر آن نظر افکنده‌اند که آینده‌ای هولناک به انتظار آنان نشسته است آنان بران شدند تا جهان را تغییر دهند آنان به طول تمام هایشان به جهان با دیدن آنچه ظلم و زشتی بر جهان بود به این تکاپون میافتادند تا جهان را تغییر دهند و برای دگرگونیان تلاش کنند از این روح هزاری برای تغییر به حرکت در آمدند و در برابر آنچه ناعدالتی و زشتی جهان بود ایستادند. لیک هیچگاه موفق به سرنگونی زشتی های این جهان نشدند. زیرا که جهان آدمیان به نظمی واحد در حال چرخش بود. ارزش‌های هزاران ساله آنها را احاطه کرده بود و به طول هزاران سال همگان به راستای آنچه از آموخته بودند راه را تکرار میکردند حتی شاید در برابر گذشتگان میستادند و برای نابودی جاه و آوازه آنان تلاش میکردند لیکن با نابودی آنان به نزب آنان وفادار می‌ماندند تا خیشتن جایگاه آنان را کسب کنند از این رو بود که هر بار رو به طول تمام این تغییرات آنان نتوانستند نظم حاکم بر جهان را تغییر دهند و از وقوع آن آینده هولناک و این حال دهشتناک در امان بمانند چه بسیار آزادگان که به جهان آمدند و در برابر ناملایمات ایستادند آنان آمدند و به قدومشان از سنگینی این بار کم کردند در برابر زشتی ایستادند و با قدی افراشته و سینهی ستبر به مسلخ رفتند قهرمانانه در برابر ظالمان ایستادند و حق مظلومان را باز ستاندند آنان دلیران دنیای ما بودند آنان چراغداران جهان ما بودند با مشعلی به دست به سوختن جانشان راه هموار را به ما نشان دادند و برای بست داد از جان گذشتند تا تغییر دهند و رویا بسازند در برابر گلوله‌های سربی ایستاد و فریاد زد باید آدمی را برابر دید باید که به او حق داد و این حق را شریف شمرد ایستاد و فریاد زد در برابر آنچه زشتی و ظلم بر دیگر نژادان دنیای بود آخر به دنیای آنان و در آن روزگاران بودند دیوانگانی که آدمی را به خون و نژاد برتر میپنداشتند و بر آنان جایگاه عطا می‌کردند گاه در برابر سرخ بوستان و گاه سیاهان را تکه و پاره میکردند. گاه به یهودیان میتاختند و گاه بر بهایان تیغ میکشیدند و میکشند. آنان به برتری منزلت میبردند و با عصای قدرت در دست همگان را میراندند و به کام مرگ فرا میخاندند. به آن مسلخ و در آن بند بود که فریاد کنان ایستادند آنان که آزادگان جهان بودند آنان که برای برابری و آزادی چشم بر جهان گشودند آنان که باید پیش غراولان نام می و به واسطه فریادشان در پیش هزاری را به خود فرا می و به بیداری بیشمارانی علت می‌شدند. آزادگان ایستادند و در برابر هر آنچه زشتی و ظلم بود جنگیدند و با خونهای ریخته بر زمینشان نهال برابری را کاشدند و آب دادند چه بسیار که فریادهای آنان به چپاول و غارت رفت بیشمار صاحبان آنان را به خود غصب کردند و دوباره دایدار برتری و قدرت شدند چه بسیار که این فریادها به تیغ تیز در خود فرو ماند و گسترش نکرد و چه فریادها که پس از پیروزی به قدرت و برتری آلوده شد و از آن دیربازان هیچ به جای ننهاد ورای آنچه آن فریادها کرد و نکرد دوباران نظم هزاران ساله به جای بود که کسی در برابر آنچه تحمیل و جبر به قدرت و برتری و یگانگیست نیستاد و این قول هزاران سر را ازل نکرد و به جای ننشاند او را به جای ننشاندند و هر بار به بودنش در این تغییر نقصانی به جای گذاشت. گاه به کشتار خاموش کرد و گاه به تذویرش خیش خاند و گاه به تحریک در خود کرد. هر بار آنچه فریاد آزادگان بود را به جای ها تا دوباره خیشتن به تخت نشیند و فرمان روا باشد. آزادگان از دیرباز آمدند و به جان ایستادند. وای از آن روز که پوست تنشان به دست ای کنده شد، به کاه را پر کردند و در دیواره شهر جنازش را آویختند تا همگان پاسخ به تغییر را بدانند و سرانجام یاقیان را ببینند آزادهای را به بند کشیدند و آنقدر به شکنجه او را بیمار به جای نشاندند تا سرآخرش در برابر عوام به لعن خیش بنچیند و بر دیفانگان درود فرستد. چهها که بر آنان نکردند و میکنند به خون آنان این هرز تنه بر خاک را می و به چنگال و دندان این دیو بیشتر بر مینشینند. می نشینند. آنگاه که آزاده ای را به بند در میدان شهر دست و پا زدند به فریادش دیو خزید و پیش رفت و بر تخت و به جان پادشاه حلول کرد و او را به دریدن بیش فرا خواند دوباره آزاده را به بند درآوردند و از هر سوی تنش را دریدند به فریادش دوباره قول هزار سر پرتوانتر از پیش به پیش رفت و همگان را به تصخیر درآورد و در سوچ همه از یاد بردند از چه روی به تغییر درآمدند دوباره دیوها به تکاپو افتادند تا هرچه از آزاده و آادگیز را به بند کشند و کشیدند؟ بند بر آزادگان آنچه از شکنجه بود روا داشتند تا او از آنچه فراخوانده فرا است به کناری بنچیند و نشست. به طول آنچه عمر بود در عذاب بر جای ماند و دیف ها به دربند بودن او بزرگ شدند و بیشتر دنیای را به زهر خیش آلوده کردند. لیک به روزی آزاده از جای برخواهد خواست. شاید نه توان خیش و بر پای خیش تنش. شاید به جان و سوار دیگری که به راه آزادگی در آمده است و مدام آنچه آزادگان به طول همه عمر فریاد زدند را فریاد خواهد کرد. دنیا به نیستی و زشتی به پیش بود و آنچه در طول دوران آزادگان اند راه به جایی نبرد. از صبویت آدمیان قطری کم کرد و در برابر آنچه دریای از این دیوانگی ها بود دوباره ادامه کرد و پیش رفت. تا جهان بود آزادگان نیز در آن زیستند و برای تغییر سر از پا نشناختند هر بار به پا خواستند و برای آنچه به زیستن بود تلاش کردند که آنان زیستن را نبرای خیش که برای همه گان می دیدند شاید هزاری اشتباه به راهشان بود شاید هزاری راه را به اشتباه رفتند شاید به ریچه نظر نکردند و آخرش در این وانفسا به هربه ای از آنان شدند. شاید به آلودگی قدرت در آمدند و آزادگی را از یاد بردند، لیچ هماره به میدان بودند و تا جهان به پیش هست به دنیا خواهند بود. بدین دوران در پیش که جهان آیندهی ای به مرک بروی داشت دواره آزادگانی به جهان بودند تا هماره به دنیای خیش نظر کنند. ببینند و به دیده هایشان ای به جهان متصور شوند. دیدههایشان بیدار شوند و به بیداری جهان کوشش کنند. آنان بودند که به روی ها و تپه ها رفتند، به دل جنگل ها نشستند و با آنچه دیده بودند به شور گفتند. رفتند تا با درخت پیر جنگل هم کلام شوند. رفتند تا با حیوان پرمهر جنگل سخنی گویند. رفتند تا به فراز کوه پرنده ای عاشق را ببینند و از او مدد بخواهند. رفتند و سر به بالین مادر پیر و دردمندشان زمین نهادند و به ناله او گوش فرادادند به زجههایی که به طول بودن آدمیان به زمین از آنان کرد از این فرزند ناخلف بسیار دید و زر زر از او خاکستر شد رفتند و به ماه درود گفتند آنگاه ماه بود که برایشان ساعتها سخن گفت از آینده ای که او خیشتن را به مرگ خواهد سپرد از روزی که دیگر خبری از جان به جهان نماند و همه چیز را انسان و ابزار ساخته به دست او پر کند رفتند و با به اجما نشستند سخن گفتند بحث کردند، راه حل شناختند به مناظره نشستند و آنقدر در برابر هم سخن خواندند تا راهی برای جهانشان بجویند آزادگان به جنگل در برابر درخت پیر خواندند که چه باید کرد تا جهان را از نابودی در امان داشت درخت به پاسخ خاند زچه روی برآنی تا جهان را از نابودی در امان بدارید آزادگان به میان خیش به کلام خواندند و به شور نشستند. که از چه روی باید در برابر نابودی جهان ایستاد آن هم به نابودی که همه جانان جهان را به نابودی خواهد کشاند. در میان شور انسان ها بود که پرنده آزاد در آسمان چرخ صد و به آستان آنان رسید همان گونه که در آسمان پرواز میکرد نداکنان رو به آزادگان خواند به تعب کدامین ارزش برآمدید. آزادگان که به جای مانده بودند از سخن او به شگفت آمدند و از یاد بردند آنچه درخت پیر گفته بود بران شدند تا بجویند که به تعقیب کدامین ارزش ها آمدند در میان تفکر آنان بود که حیوان مهربان در جنگل در برابر آنان سحب شد و این گونه بر آنان خاند. به مهر در آمیزید و از آن بسازید آنچه چه تمنا اید. آزادگان به دانستن آن چه حیوان مهربان خوانده بود ارزش خیشتن را مهر خطاب کردند و با خود خواندند ما به تعقیب مهر برامده و از برای مهر نخواهیم که جهان به نابودی کشانده شود. آنگاه که آزادگان به شوق از آن چه دریافته بودند می‌خواندند خورشید به تلعلو اشبانان گفت چه چیز با ارزشترین جهان شماست آزادگان به بحث درآمدند و هر کدام چیزی خواند یکی شجاعت را والاترین خواند و دیگری ایمان را یکی از آنان عیسی را معیار خطاب کرد و دیگری از وطن یاد کرد آزادگان با هم می‌خواندند و در میان خوانندگانشان ماه آرام خواند چه چیز از خیشتن را خواهان محافظت خواهید بود آزادگان خواندند آزادی را برخی از آنان فریاد زدند شجاعت را برخی شرافت و برخی کرامت را بسیار گفتند و هر کدام به محافظت از ارزشی بر دیگران خواند تا اینکه به یاد گفتار حیوان مهربان افتادند و برخی مهر را حافظ شدند انگاه زمین که دردمند بود گفت من به داشتن چرزشی برخیشتن باریدم. آزادگان به تفکر در خیش ماندند و پاسخی برای آنچه زمین گفته بود نداشتند که این بار ماه با صدایی دور از دنیای آنان خواند به جان بنگرید و خیشتن را از جان بپنداری که بی هیچ از شمایان به جهان نخواهد بود. آزادگان به آنچه چه ماه خانده بود تعمل کردند و با خود اندیشیدند آنچه در برابر و با ارزش‌تر است جان است و چه ارزش خوانده خواهد شد از سوی آدمی که به تعییب به بی‌دوره است برآمده است آنگاه که جانی در برش نیست آزادگان به گفتار آنان گوش سپردند به گفتاری از جان که به طول تمام بودن جانان جهان از ماه و خورشید و زمین و آسمان تا حیوان و درخت و کوه و دریا هزاری خوانده‌اند لیک آنان آنچه در برابر بود را به دیده نپذیرفتند و از خود دور کردند تا به طول هزاری سال با آنچه ارزش از انسانها بود درامی و هر بار به تغییر نتوانند آنچه بنیان را به چنگ آورده است دکرگون کنند آنان به دانستن آنچه از جان برون آمد بران شدند تا این ارزش والا را بیشتر بشناسند آنگاه بود که به معنای راسین زندگی که همان در امان بودن و به زیستن جان بود باور کردند. آنگاه بود که دانستند بیان که جانی در بر آنان باشد به هیچ کدام از عرضش های خود ساخته نیز نخواهند رسید. آنگاه بود که دانستند همگان به جان در جهان ماندند و بی جان از آنان هیچ به جهان نخواهد بود. به صدای ناله های حیوانی گوش سپردند که به جانش رو رازه دنیا پیش بردند و دیدند که چگونه آشق به زیستن است. دیدند و به خیش نگریستند. به آنچه از ابنای آنان به جهان بود. دیدند که چگونه به زایل کردن آنچه زیستن است هر بار از جان دورتر شده و آن را بی ارزشتر خطاب کردند. دیدند که چگونه به طول تمام این سالیان آنچه یگان ارزش دنیا بوده است را از میان بردند و هزاری ارزش خود ساخته به جای آن نشاندند. دیدند که چگونه به این واماندن در دیوانگی دنیای را به نابودی کشاندند و از زیستند دور شدند و آنگاه بود که دانستند باید در برابر آنچه نظم حاکم است ایستاد و جان را بالا خوند. آزادگان هر بار به دل ها رفتند. در برابر دریایی ایستادند و هر بار راهی را برای همکلامی با بیشمار جانان جهان در پیش گرفتند تا از آنان بیاموزند آنچه چه جهان آنان را به نابودی کشنده است. هر بار آزادگان به نجواهای آن چه ماه میخواند گوش فرادادند. و آنچه زمین و خورشید خواندند، تعمل کردند و هر بار به جانی از درخت و حیوان و انسان هم کلام شدند تا بدانند برای ایجادن در برابر چنین نظام چه باید کرد و چگونه باید آن را دگرگون ساخت. هر بار به جمعهایشان به گفت و شنودهایشان از چیزی خواندند که دنیاشان را به تباهی کشاند بود. از قدرتی که همه را به بند درآورده و دنیا را به نابودی کشانده است. از قدرتی که یگانگی را پدید آورده و از این برتری خواستنها آنچه برابری است به کام مرگ فراخوانده خواهد شد آنان گفتند و نهایش خواندند آنچه از جان را در نیافتند ارزشهایی که ازذاب جایش را گرفت آزادگان به اعماق گفته ها و شنیده هایشان بران شدند تا در برابر آنچه خوانده شده است بیستند آنجا بود که زمین برایشان لالا خاند برایشان از گذشتگانی گفت که دنیا را به تباهی بردند از حالی که در این مرداب در و از این قدرت که آدمیان را به جبر فرا خانند آدمیانی که به جبر اختیار را از دیگران می و با این تحمیل آنچه چه بهزیستنه است را از میان بردند آنان که از جان هیچ نمی دانند و و بر بران ارزش نگذاردند به این تحمیل و دراغوش آن قدرت همه را از جان ساقط خواهند کرد و اینگونه است که دنیا به تباهی منزل و آدمیان هر بار از زیستن دور و دورتر شدهاند زمین برای آزادگان خواند از دنیایی که به طول تمام دوران بر جبر خوانده شد. آدمیانی که جبر را پیشه کردند. برای آنچه تحمیل خواندند قدرت غبزه کردند و هر زشتی را روا داشتند. آنجای بود که هیچ از آن چه آزادی خانده اید به جای نگذاشتند و حال دنیایتان به آن چه آزادی خاندند تحمیل به دیگران شده است ماه به میان آن چه زمین میخواند آمد و رو به آزادگان اینگونه گفت چه چیزی به شما احساس به نزدیکی آزادی خواهد داد؟ بیشک و بیان که بران تفکر کنند همگان از اختیار خواندند. همگان آزادی را اختیار داشتن در نظر گرفتند و اینگونه بود که زمین به نجوایش ادامه داد زمین گفت ای فرزندان راستینم ای آزادگان که آمده تا جهان را دگرگون کنید بروید و هر آن کس نامی از شمایان داشته بخوانید این زمین از برای همه شماست بگویید مادرمان خیشتن را برای زیستن ما در برابر نهاده است تا ما از آنچه زیستن است لذت بریم و بهره جوییم او خان تا به شمایان بگویم همه را به اختیار خیش آزاد بپندارید و بدانید هر شمایان آزادی خوانده و به جبر بر دیگران روا کرده اید اصارت است برابر به آزادی و علیه آن ارزش است زمین عشق ریخت و آنگاه رو به فرزندان خواند روزگار درازی به شمایان چشم دوختم. به شمایان که آزادگان لقب داشتید، به شما چشم دوختم تا در برابر ظالمان بیستید تا دنیایی به برابری رغم زنید تا جان را محترم بشمارید و آنچه است را به جهان نشتهید. شمایان دایدار نام آزادی شدید و در برابر ظالمان ایستادید دید چگونه به جبر آزادی به دیگران فتیه کردید. چگونه باری نین اندیشیدید که آزادی همانا اختیار خوانده شده است ای وای فرزندانم از این دیوانگی های مدام شما به تنگ آمدم بارها طلب مرگ کردم و به بودن جانان جهان در خویش از آنچه تصمیم خواندم منصرف شدم و حال به طول تمام این سالیان تنها بیدار رنج میبرم و هر بار تمنای مرگ می کنم آزادگان به دنیا نگریستند و آنچه مردمان آزادی خوانده بودند را نظاره کردند. چه تصویر از آنچه آزادی به دنیای آدمیان بود در برابرشان نخش بست؟ چگونه آنان آن را جبر حاکم بود و اختیار از همگان سلب شد؟ آزادگان جهان خیشتن را دیدند و دانستند آنچه تاکنون کردند دور از آنچه حقیقت آزادی بوده است نام خواهد گرفت. آزادگان دیدند و دانستند برای تغییر این دنیا باید که آنچه ارزش به دنیا خوانده است را دگرگون کرد و دوباره از نو پدید آورد آزادگان باز به شور رشستند و باز برای هم خواندند. هر بار به مشورتی از جانان جهان دانستند که باید ارزشی به ارزش تازهی بدل شود و همه چیز را از نو بنیان کرد یک بار پرنده در آسمان گفت باید آنچه تحمل اید را به اختیار در میان آدمیان دگرگون کنید. باری دریا فریاد زنان به خروشش خواند باید آنچه چه یگانگی را به شرک بدل کنید و قدرت را به تقسیم و تخصیص به شرط و نظارت وادارید تا این دیو در بند توان دریدن را از خود دور ببینند و به یاری شمایان برخیزد. ماه آرام لالا می کرد باید آن چه برتری خانده شده است را به تصویر برابری تغییر کرد و آنچه آدمیان ارزش به برتری خانده را از میان برد هر بار جانی آمد و فریاد زد آمد و خان تا ارزش های آدمیان یک به یک تغییر کند تغییری از این که همه دنیای آنان را به دگرگونی خیش متغیر کند جهانی دور از آنچه امروز آنان بود دور از آن چه فردایی به انتظارشان بود را پدید آورد. آزادگان دیدند و به نهای تمام فریادها، تمام اندرس ها، تمام خروش ها و تمام درودها از جان گفتند. از آزادی خواندند و قانون آن را یگان دلیل بودنش در جهان دیدند. خواندند که باید جان دیگران را پاس داشت. باید به دیگران احترام کرد و باید همه را به اختیار وانهاد تا آزادی به جهان حاکم شود. آنان مدام این را خواندند و اینگونه بود که دنیایی به عظمت آن چه آزادی بود را برای خیش تصویر کردند. تصویری از دنیای آزادگان هزاری آزاده که هر کدام توان آن داشت که بیستد و همه را به این ارزش‌های تازه فرا بخواند به ارزش‌هایی هایی که دنیای را دگرگون می کند و جهان تازهی بدل خواهد کرد. شاید تمام این فریادها و تغییرها را پیرمردی به دل جنگل نگاشت او کتاب نوشت و پس از مرگشان چه از تغییر جهان بود را برای دیگر آزادگان به یادگار گذاشت شاید تمام این فریادها را رهی می که در دل صحرا تبعید بود و به نگاشتن هزاری را به خود خاند و برایشان از آزادی در پیش گفت آنان را به ارزشی فرا که همه از جان و برای جان باشد شاید این فریادها ها را تهمینه ای زد که دل به آزادی سرزمین خیش بست و به آزادی در سرزمینش دانه است که جهان آزاد را طالب است. آنگاه بران شد تا ارزش جان را به جهان دهد و برای آزادی فریاد کند. شاید تمام این فریادها ها آن بینامی بود که در خیابان فریاد زد به میان آدمیان آمد و در هزار توی ندای او را شنیدند و گوش به گوش بر هم خواندند تا جهان را پر کرد. شاید تمام این فریادها را همه آدمیان به شبی در خواب و رویایی دیدند و آنگاه بیدار شدند تا همه در کنار هم باشند و فریاد کنند. شاید تمام این فریادها را ماه و جنگل و درخت و حیوان و دریا زدند و انسان شنید و به دانستنش آنچه الخاند معمور شد تا جهان را دگرگون کند. شاید این فریاد را بیشمار شما رادمیان به هم و با هم در کنار هم و به یک روز خاص زدند و آنقدر به شور نشستند تا راه چارهی دریابند و آنگاه که دریافتند جان را فریاد کردند و جهان را به خود فراخواندند. شاید این فریادها از هزاری بود و شاید آن گفت چه ارزش که چه کسی آن را فریاد کرد؟ ارزش بود که فریادش چه بود و به تغییر این نظام چه آرمانی تصویر کرد فریاد کرد تا فریادش را بخوانند و نظم تغییر دهند تا جهان جای زیستن شود آنگاه که نظم پیشتر تغییر کرد و جهان جهان جانان شد نام او را باید که از خاطر برند و دیگر از او یاد نکنند فرای که فریاد زد و کیستنش را دانستم هزاری زمین میخواست این فریاد همگان باشد. این ندای از دل همه و به دانستن همگان باشد تا روزی همه با هم برای تغییر آن دنیاست دنیا و برایش از جان بگذاری زمین مدام میخواند و به هر که در برابرش بود میگفت این آرمان تازه و تغییر جهان فریاد همه است که جانند و یگان ارزششان جان آنان است. برای احترام بر آن جنگیده و برای ساختن آن چه است می دانند. آنان به جان برابر و حال به آرمان برابر شدند. آنان به دین برابری جهان برابر پدید آوردند و دانستند که باید با هم بود. زمین میخواند و ما خواندیم و دانستیم که فریاد تغییر از همگان بود و برای همگان بود که جان یک تای همگان بود و در اختیار همگان بود. کتاب رویا اثر نیما شهرساری فصل چهارم بعد از تمام این خاندن و دانستن بود که آزادگان بران شدند تا به بیداری همگان همت گمارند و آنان را به این طریقت برای دگرگونی جهان فرا بخوانند آزادگان به هر کوی و برزندر آمدند و برای همه خاندند. خاندند تا بیدار کنند مردمان را به فریاد. به درخیش نماندن و برون شدن به ایستادگی و تلاش. آزادگان آمدند و مردمان را به طریقت تازه فرا خواندند. صدای آرامشان به گوش ها رسید و مردمان شنیدند شنیدند و اندیشیدند از آینده در کمینشان، از حالی که جهان را به نابودی کشانده است مردمان که بیشترشان از مظلومان جهان بودند به شنیدنهای فریادها واکنش نشان دادند و خواستند دنیای ساخته در برابر را دگرگون کنند لیک شما ظالمانی جهان راهاته کرده بودند تا در برابر این تغییر بایستند و برای حفظ تاج و تخت معترضان را به کام مرگ بفرستند ظالمان و قدرتمندان بر تخت نشستگان و آرزومندان به تاج و تخت هزار ارتش ساخته بودند هزاری نیرو برای در امان داشتن خیش فرا بودند و در تمام جهان نشت داده از مراقبان خیش آنان به تفاوت ها به تنفر میانشان به خواسته های بیبدیلشان با هم جمع شدند و در برابر دشمن واحد ایستادند. میدانستند این اتحاد و یکپارچگی، این تغییر برای پدیدار کردن جهان آرمانی موجبات نابودی قدرت آنان را فراهم خواهد کرد. پس از این رو بود که با هر تفاوت میانشان به یکدیگر دست دادند تا آنچه تغییر در برابرشان بود را نابود کنند. هر که در داره ره قدرتمندان بود و یا آرزوی رسیدن بر قدرت داشت با آنان همراه شد و جهان دانست است که نیروی برای تغییر برآمده است. دانا بر ما بگو از آنان که چه می گفتند, چه می خواستند و از برای چه به تغییر درامده بودند. مردمان ناخشیار در گوش مانده و خواب هم خواستند تا بدانند از فریادهای های آنان، جماعتی که به خاموشی موجبات بودن ظالمان را پدیدار کردند مردمانی که به طول تمام سالیان بودن انسان و قدرت پرستی او هماره به کناری نشستند و برای تغییر هیچ نکردند و به خموشی آنان هر بار ظالمان جریحتر شدند هر بار دانستند که بیشمار آدمیان در خواب مانده به این تغییر هم نخواهند شد و بخشی از این دگرگونی را نخواهند ساخت و این گونه آنان با خیالی رها آن کردند که رویا داشتند. زورگویان به داشتن چنین آدمیانی خموش بر خود بالیدند و دانستند تا آنان بیدار نشوند تاج و تخت از برای آنان خواهد ماند. ولی این بار آنان هم میخواستند بدانند که از برای چه دلیل این سیل خروشان به راه افتاده است. آنان بر همگان خواندند که باید جهانی به دور از تحمیل و جبر پدیدار کرد. آنان بر همگان ندا دادند و همگان را به اتحادی عظیم فرا خواندند تا هر کس به راه باور خیش و برای کشور و میهن خیش به جنگ بازورگویان براید. آنان دانسته بودند که برای تغییر این نظام جهانی باید که جهان تغییر کند و باید که همه ی آدمیان به کنار هم درآیند تا در طلوعی غرورنگیس همه جهان دگرگون شود و نظم کهن جهان به نظم جان بدل گردد. آنان برآمدند تا جان را یگان ارزش جهان کنند و همگان را بران دارند تا از این ارزش والا پاسداری کنند. آنان فریاد احترام بر جانان جهان سر دادند و همگان را فرا خواندند تا در برابر هر ظلمتی که آزار به جانها ها رسانده است، بایستند و آن را تغییر دهند. جان ارزش والای آنان خطاب شد تا به واسطه آن دیگر هیچ جانان جهانی به زیر تیغ سپرده نشود. نه برای خونخارگی انسان ها، نه از برای لذات و شهفت آدمیان، نه برای در اختیار داشتن پوست و خونشان، نه برای به اصارت بردن و بهره جستن، نه برای بزرگ کردن قلمروها و افسودن بر و مقام ها، از برای هیچ آزار جایز نبود. آنان فریاد زدند تا جان همه جانداران به جهان پاس داشته شود و آن را محترم بدانند. جبر از جهان ریشه برکند و آزادی به احترام بر جان و پاس داشتن اختیار تصویر شود. آزادگان به خیابانها و در دل مردمان خواندند و هر بار تصویری از جهان آرمانی را به آنان نشان دادند. نشان دادند که آینده یه زشت و تاریک آنان به تلاشهایشان قابل تغییر به ایدهها و رویاه هاست. آنان رویاه تصویر کردند و هر بار بر رویاهای ساخته بالو پر دادند تا بیشتر آدمیان را به خیش فرا بخانند. تصویر جهان آرمانی جهانی به وسعت اختیار داشتن همه جانداران میهن برای همه جاندارن و زیستن به آنچه رویای خیشتن است هر بار در میان آدمیان نش رفت و هر که به هر باوری که داشت برای زیستن به جهانی در آرامش خیشتن خود را به پیوستن در این جهان آرمانها شریک دید و به میدان آمد. آن اکثریت خاموش در حصار آمده هر بار با دیدن بیشمارانی برای ساختن آرمانهایشان به میدان بودند. بیدار شدند و به آنان پیوستند که هر که در این رزم آرمان خود را فرا میخواند نیاز بر آن نبود تا همه به یک آرزو بیاندیشند. همه تمناهایشان از زیستن آزادی به اختیار دیگری باشد و از رویای فروخته آنان بخورند و بیاشامند آمد. این آنان به رویاهای های پدید آمده به افکار خیش در میدان بودند. این باران برای جنگیدن به میدان خود در کارزار بودند و آرزوهای خیشتن را جستجو می کردند و اینگونه بود که ایمان به جهان آرمان ها بیشتر و بیشتر در دل آدمیان بیدار شد و از هر کدامشان آزادی پدید آورد. زورمندان به دیدن این اتحاد و بیداری خاموش جهان به خود لرزیدند تختهای با شکوه خود را به شرف نابودی و خزان دیدند آنچه به تحمیل در طول این سالیان از قدرت در اختیار گرفتند را به نابودی دیدند و باز با هم نشست گذاشتند و بیشتر به هم نزدیک شدند. دشمنان دیروز، دشمنان قسم خورده که برای نابودی یکدیگر سالیان نقشه کشیدند و بارهای یکدیگر را به تم و آزمندی قدرت تهدید و تخریب و تحکیم کردند حال به کنار هم برای نابودی دشمن تازه سربراآورد نقشه میکشیدند به هم یاری می رسندند و هدفشان نابودی این دگرگونی تازه سر برآورده بر جهان بود که جهان آنان و قدرت آنان را از میان می برد. باید بر تعداد نگهبانان شهر افسود باید با معترضان به سختی برخورد کرد باید آنان را از زیر تیغ گذراند باید همه را به مرگ می کرد باید آنان را به زندانهای طویل مدت انداخت. باید آنان را وادار به گفتن کرد تا در برابر این نظم خود ساخته خیش بیستند و علیه آن سخن بگویند باید آنان را وادار به درامیزی با قدرت کرد میتوان آنان را به تمه زر و زور به خیشتن نزدیک کرد میتوان آنان را به کشتن از صحنه دور کرد و میتوان آنان را به بازی در خیش نگاه داشت باید که راهی جست تا خاموشی دوباره آدمیان به جان آنان برگردد. میتوان آنان را به فقر و تا بیشتر به زندگی حالشان بپردازند و رویا را از یاد ببرند. زورمندان به اتاقهای تاریک در پشت در پای بسته ساعتها به نظاره نشستند. ساعتها به هم سخن گفتند تا در برابر این تغییر جهان شمول به ایستند و راه علاجش دریابند. از هر کدام این راهها مدد بردند و به خاموشی آدمیان همت گماشتند اما این جرقه تازه برخواسته از جان همگان برای تغییر آنقدر شعلهور بود که به آب ریخته آنان بیشتر بسوزد و پیش رود آدمیان دربند به یاد آرزوها و آمالشان میخوابیدند چهرهی آن کشور آرمانی خود را تصویر میکردند کشوری که در آن برابری معیار ملاک باشد کشوری که در آن سلطگرد دین باشد کشوری که در آن نام خداوند هماره خطاب گردد کشوری که در آن آزادی یگان میار گردد و هر تن به آرزوی خیش تصویری به جهانش داد تا به فریاد خیشتنش سرپا شود و جان گیرد آدمیان خاموش دیروزها امروز همه از آزادگان بودند و با هیچ هربه از زورمندان در خود نمی نشستند. به میدان شهر در برابر دیدگان بسیار هزاری را دست و پابسته به جوخه های دارس پردند. آنان را آرمان خواهان و دیوانگان خطاب کردند هر تخمت بر آنان خواندند و به آخرش آنها را به گلوله به مرگ نشاندند اما به کشتنشان نه خاموشی آدمیان که فریاد دوباره آنان را پدیدار کردند و جای جای جهان به کشتن آنان تصویری از تغییر به خود داد همه در خیابان بودند همه فریاد می زدند هر کارمان خیشتن را آرزو می کرد جهانی که در آن قدرت به اختیار همگان درآید قدرت تقسیم و تقصید گردد کسی را یارای تحمیل بر دیگران نماند و هر تم به آرزوی خیش زندگی کند دیگران را کاهلان جهان خطاب نکنند و اگر برتر پنداشتند به دایره خیش دورتن از آنان آزارشان من و غیر ممکن باشد به رویای طویل آزادگان همگان درود گفتند و به میدان آمدند شعارها تمام خیابانهای جهان را پر کرد جهان به همه عظمتش در شور آزادگان غرق شد و زورمندان در برابر آنان ایستادند به نیروهای نگهبان قدرت خطاب کردند تا هران کس که در خیابان است را به تیر ببندند و در برابرشان بیستند گلوله های سربی با توم ها و گازهای اشكاور در برابر آزادگان شلیک شد آزادگان به رویاهای در دور فریاد کشیدن و جهان به واژه آزادی اتراگین گشت آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی اینبار آزادی برای همگان معنایی یکسان داشت معنایی به بزرگی بزرگ داشتن جان جاندارگان و پاستاشت و احترام بر آن و اختیاری که همگان را به آزادی خیش رهسپار سپار کند و هر کس به هر جای شعار آزادی را سر داد تا جهان به جهان آرمان ها بدل شود. تیخ های تیز و تزویر ها چهره گسترانده از ظالمان در برابر فریاد های لیک توان رویاروی با آرزوهای بزرگ آزادگان را نداشت که هر کس برای آزادی خود به خیابان بود. آزادگان عهد بستند تا دگرگونی نظم جهان شمول کنونی از جای نروند و به خیابان بمانند. به کنار هم باشند و یکدیگر را مدد کنند. زورگویان به هر چه اسباب در اختیار داشتند بران آن بودند تا در برابر این موج خروشان بایستند. آنان را به تنگنا وانهند آنان را به تنگنای فقر و تنگدستی دستی دهند هند لیک این همپیمانی آزادگان برای امداد به یکدیگر دیگر راه جهان آنان بود هر که هرچه داشت برای ازمیان بردن آنچه تزویر زورگویان برای به بند کشاندن جانان به فقر بود را ازمیان برد و این نیرو از آنان نیز بدل به راه کاری برای فرونشاندن آنان نشد این بار آزادگانی به وسعت همه مردمان جهان همه در خواب ماندگان و خموشان دوران به میدان بودند این بار نه آرمانی یکتا برای همگان که آرمانهای بیبدیل آنان در کنار هم برای ساختن جهانی به وسعت همه آرمانها همه را به خیابانها کشانده بود آیا تنها طریقت از میان بردن زورگویان همین در خیابان بودنها بود؟ آری باید که برای دگرگونی به خیابان می آمدند در خیابان حق خیش را خواستند و برای آرزوهای خود فریاد میزدند. این حق را کسی به آنان فدیه و تخفه نمیداد و کسی طلب از زورگویان حقوق خیشتن را نمی کرد. همه آمده بودند تا حقوق خیش و جهان خیش را خودشان بسازند و در برابر آنچه چه ظلم از زورگویان بود بیستند فریادهای در هم تنیده شنیده میشد. خیابان کارزار آنان بود و عدگاه آنان برای باستاندن آن چه به طول هزاران سال از آنان روبوده شده بود آنچه در ذهنها و دلهای سالیان سال پرورانده بودند و هر بار به طریقتی از سوی زورمندان قسم میشد و از آن چیزی به آنان عطا نمیگشت، آنچه آن چه آرزو کردند را می و هر بار آرزومندان و آرمانگرایان را به تهمتی از میدان به در می بردند. به دنیای آنان که به طول سالیان آنچه از آرمان و ایمان بود به چوب تکفیر رانده شد و هر بار آن ای زدند و به دیوانگی متهم کردند چگونه دوباره زنده شد و همه را به راه آرمانشان به جنگ برد آرمانها را گرچه به طول سالیان در همه خوشگاندند و همه را به تکفیر در خود واداشتند گرچه هر بار هر کسی از آرمانی گفت متهم به دیوانگی و زندگی در خیال شد لیچ به دل همه آدمیان به طول همه خانده ها آرزوی از جنس خودشان بیدار بود هر کس برای رسیدن به جهانی در رویای خیش آرزویی داشت هر بار هر کس به تنهایی عضلت به جمع ها و بادیگران به یاد آرزوهای درون ذهنش میافتاد و با دل سپردن به آن بود که دنیای را سپری می کرد. به آرزوی وسال آن بود که میتوانست این زندگی نکبتبار را طی کند و حال هرکس به ندای خیشتن و به آرزوی درخیش به خیابان بود هرچند از آرمانگرایی و دیوانگی در آن خواندند لیک نتوانستند بذر امید در دلها را خاموش کنند که آرمان یگان امید و همگان به دنیا و زیستن در آن بود پس به فریادهای هزاری هزاران بیدار شدند و آنچه از خاطراتشان در آرمان و ایده هایشان آنچه از آرزو و امیالشان بود را بیدار کردند تا به تلاش خیشتن آن را باز ستانند و در برابر ظالمان بیستند. شور به جهان آدمیان زنده شده بود. توقیان بیدار بود و یاقیان آمده بودند تا آنچه از دنیا آرزو داشتند را به دستان خیش بسازند. کسی را یارای برابری با آرزوهای آنان نبود هر چه داشتند از آرزوهای ساخته به دنیای خودشان آنچه از آرمانهای بافته از ذهنهای خودشان و آنچه آزادی با معیارهای دنیای خودشان بود را به آدمیان عرضه کردند و در برابر آرزوهایشان زورمندان توانی نداشتند تا ارزندا میکنند این بار همه برای آرمان خود به خیابان بودند هر بار با بستن چشمهایشان به یاد آرزوهای در دور دستان تصویری از دنیای آرمانی خود میساختند و زنده بر آن تا دنیای ساخته به ذهنهایشان را تصویر واقعی بخشند جهانی بیان که جنگی در آن باشد جهانی که تحمیل در آن ریشه کن شفت. جهانی که هر کس به آرزوی خیش زنده باشد جهانی که هر تن صاحب وطنی شود. میهنی به وسعت آرزوها و آرمانهای خیشتنش زندگی به کنار آنان که هم باوران او خطاب شدند یکی از آزادگان به کنار خاموش ماندهی در جهان از آدمیان نشسته بود و اینگونه گفت میدانی آدمیان به چه زنده خاموش سری تکنداد و بیمیل به نشانه ندانستن از او خواست تا پاسخ گوید انگاه آزاده گفت آدمیان به باورهای خیش زنده هند. آنان به آنچه باورداشتند میزیند و اینگونه باید که میهن و اجتماع تشکیل دهند. خاموش مانده به حرفهای او دقت کرد و آنگاه با تکان دادن سرش به هر دو سو باز هم ساکت ماند. آزاده با هیجان بیشتری رو به او گفت ما به طول سالیان دراز آنچه اجتماع ساختیم به جبر بود. هماره فریاد به آزادگی و آزادی سر دادیم بیان که بدانیم آزادی چیست. بیان که بدانیم آزادی چگونه محقق خواهد شد آنگاه برخاست و در برابر دیگرانی که در حرکت بودند گفت آزادی همانا اختیار است آنگاه ما آزاده خطاب خواهیم شد که اختیار را برگذیمیم و را به فراموشی سپاریم مردمان در حال عبور و مرور در خیابان از گفته های او شکه بر جای ماندند که آزاده با فریاد رساتری گفت حال برای آنکه پاسدار این آزادی و اختیار باشیم میدانید که چه باید کنیم؟ مردمان در برابر به او چشم دوختند بیان که کسی پاسخ گوید آزاده خیشتن خواند باید که به دیگران آزار نرسانیم. آزادی را تنها با اختیاری که آزار را شده است می همیشگی و هموار کرد. مردمان از کنار او گذشتند و به حرفهایش گوش سپردند. تا آنجا که روزی اگر آزادگان بیشماری در خیابانها فریاد من آزار سردادند به کنار آنان هم کنند و بدانند آزار نرساندن به مانا بودن آزادی یاری خواهد رساند آزاده رو به فرد خاموش کنارش کرد و در حالی که بر جایش آرام می گرفت گفت آدمیان به باورهای خویش و باید که میهنی به باورهای خیش بسازند آیا دو هموطن که وطن را به جبر به عرص بردن بیشتر احساس قرابت می یا دو نا که نه به عرص و وراست که به تحقیق و به باوری مشترک رسیدند؟ حال آن دو به رنگ و نژاد و خون و میهن هزاران سال از هم دور باشند آنجا که باورشان یک و ایمانشان یک است آیا بیشتر احساس قرابت به هم نخواهند کرد؟ خاموش به یاد هم همباورانش در سرزمین های دور افتاد آنان که همچو او به آرمانی واحد برای بهبودی جهان میاندیشیدند آنان را به نزدیک خود دید و خیشتن را همراه آنان شمرد از آنان خواند و به آنان نزدیک شد انگاه بود که در اعماق خیالش جهانی را تصویر کرد که در آن او به کنار آنان که آرمانشان با او یکسانه است زندگی کنند هر تلاشی خواهند کرد تا دنیا به آنچه آنان آرمان خود فرا خانده اند نزدیک تر شود و انگاه برابر به هم از هم خواهند شد آزاده رفت اما به فردا و فردای بسیار دیگر در آن روز و به همه جهان آزادگان بسیار در کنار خموشان جهان خاندند تا آنان را به بیداری رسانند و همه در کنار هم برای تغییر جهان به خیابان درآیند و اینگونه بود که خیابان از قدوم همه آدمیان پر شد زورمندان کلافه و دیوان وار به این سو و آنسو می رفتند آن از ثروت و زر در اختیارشان بود را به خدمت گرفتند و در اختیار نگهبانان قرار دادند تا قدرت را برای آنان پاسوان باشند اما قدرت هم فهمیده بود که دیگر برای او و ماندن در کنار آنان جایگاهی نمانده است سر به پایین انداخت و رفت زورمندان دیدند که نگهبانان لباسها را کندند جامه های ننگین را هستن دریدند و به صفوف آزادگان ملحق شدند تا آنچه آرزو داشتند را به اختیار برند. آنان از جبر هماره زندگیشان به سطوح آمدند. هماره تصویر فرمانهای پیاپی را دنبال کردند و دیدند که زیستنشان هماره به فرمان دیگری بوده است و حال خواستند تا دنیایی به اختیار را تجربه کنند. شاید از میان آنان که نگهبانان قدرت خطاب شدند بسیاری ماندند و به کنار زور گویان تا آخرین نفس کمر به کشتن جانان جهان بستند لیک بیشمارانی از آنان به اختیار در آمدند و جامه دریدند تا طعم آزادی را بچشند و به آغوش او درآیند. خیابان‌های خیابانهای پرشور جهان تصویر انقلابی داشت به وسعت همه دنیا برای ساختن جهانی به وسعت همه ایمانها، باورها و آرمانها، جهان در شرف دگرگونی و تغییر سراسری بود. آن چهره هزاران ساله باید که تغییر می کرد و سیمای تازهای در آن نقش میبست تحمیل هزاران ساله در شرف رخت بربستن از جهان آدمیان بود. اختیار لانه می کرد تا همه دنیا را فرا گیرد و قدرت آمده بود تا این بار به جانان جهان خدمت کند. آمده بود تا فرمان نراند و این بار در اختیار عمومی عظیم و به قانونی برابر در اختیار همه جانان جهان قرار گیرد. زورمندان و زورگویان، فریفتگان قدرت آنان که به دیوانگی وامانده بودند در این دیوانگی از جهان رفتند و قدرت را به کویی دورتر جستند و آنان که بازماندگان آنان بودند از ترس جانشان به ایوانها آمدند به پشت جعبه های جادو نشستند و در برابر دیدگان عموم از آنچه کردند اوز خواستند و طلب مخفرت کردند آزادگان فریاد آزادی سر دادند و احترام به جانان جهان فریاد شد. آزادی مانان نخواهد بود مگر با احترام به جان همه جانان جهان هر که جاندار است و والاترین ارزش او به دنیای جان اوست. فریاد آزادگان همه جهان را فرا گرفت و همگان به کنار هم آنان که دیروز زورگویان بودند را به جان خطاب کردند. و به میان خیش به برابری فراخندند تا آنان نیز به فردا از آنچه آرزو و آرمانشان است دفاع کنند و جهانی به وسعت آرزوهای خیش بسازند لیک نه به جبر بر دیگران نه به آزار جانان این بار به قواعد و قوانینی که آزادی و آزادگان فریاد می‌کردند. اینگونه جهان دیروز و آنچه آینده ننگین آن در پیش بود به تصویری تازه به وسعت همه باورها و به اختیار همگان و احترام بر جان همه جانان جهان شک گرفت نام جهان پدید آمده را جهان آرمانی گذاشتند و جهان تازه آدمیان به وقوع پیوست آرزوی تغییر هزاران ساله، آرمانهای به دلمانده و آمال در جان همگان به وقوع خواهد پیوست و آنچه رویا خطاب کردهاند به تلاش در پیش است هر بار آن را تصویر کردن امیدی است که آن را پدیدار خواهد کرد. آزادگان هر بار تصویر کردند و به نزدیکی تصویرش آنچه آرزو کردند را به تلاش ساختند و فهماندند که آنچه را رویا خطاب کرده‌اند به نزدیکی آرزو و به تلاش حقیقت خواهد شد. هر روز به آنچه رویا خانده اید نظر کنید و با دیدنش، با تصویرش و با امیدش آرزو را به تلاش در اختیار خانید که جهان از آن همه جانان در آن است بدین رویا زیسته و جهان را تغییر خواهیم داد کتاب رویا اثر نیما شه فصل پنجم جهان آرمانی و زنده به آرمان همگان به تلاش جانان جهان شک گرفت و ساخته شد چه تلاشها ها که به راه ساختن آن کردند چه خونها که از پاکان جهان به زمین ریخت و چه آزادگان که به بند در آمدند. تلاش بسیار کردند و سالهای دراز این تلاش ادامه کرد لیک آنان از ایمان و امید به جهان آرمانی دست نکشیدند و اینگونه بود، که به آخر هر آنچه تلاش کردند جهانی به وسعت آرمان های کایکشان ساختند. هزاری بودند که ندانستند چگونه جهان را به تمام قدرت درون آن توان تغییر بود چگونه آدمیان به آزادگان بدل شدند و چگونه توانستند این دنیای بدسیرت را چهره تغییر دهند؟ بارها به نقشه ها نگاه خواهند برد، بارها برنامه ها را از زیر نظر خواهند گذراند و بارها اندیشه خواهند کرد که چگونه این دنیای را پدید آوردند آری حتی زمین هم از وقوع انقلاب آزادگان در شگرف بود اونیز حیجان زده به صحنه خویش گریست و نمی دانست چگونه ممکن است آدمیان دیربازان به آزادگانی بدل شوند که چه قدرت در جهان بود را به زانو در و به عزل آنان همت گمارند و بر جای نن و تا تغییر همه بنیان ها بر جای نماند زمین به ماه مینگری سو ازو میپرسید خورشید به میان حرفشان می آمد و حیجان زده از آنان راز موفقیت آدمیان را می خواست دریاها مواج و خروشان آوا سر میدادند که آدمیان بالاخر به خیش آمدند و جهانی برای زیستن همگان فراهم کردند ندای فراخی زمین و زمان را پر کرد و آنگاه به نهایش همه دانستند همه دانستند که بیدار شدند آدمیانی که آزاده خطاب شدند. همه آزاده خوانده شدند که دانستند چه به دنیایشان گذشته است. چه می‌گذرد و چه تصویری در آینده خواهند داشت. به آنان هماره این تصویر نشان داده شد و فراتر از آن به آنان خانده شد که به رویای خیش زندگی کنید. جعب را از میان برید و اختیار را به خدمت گیرید. به آنان خانده شد آنگاه بود که مردمان به آزادگانی برای اهداف و باورهای خیش بدل شدند و هر که به راه ایمان خود به کارزار رفت. هدفی مشترک که زیستن به اختیار و حرمت بر جان بود و های مجزا که همه را به هدفی یکسان متحد کرد. آنگاه بود که کسی بر جای ننشست و تا آخرین قطره خون به میدان بود و جهان در برابر این اکثریت مطلق توان ایستادن نداشت. که هرگاهانان بخواهند همه چیز را توار تغییر خواهند داشت. این ندای واحد را همه گوش فرادادند و دانستند که جهان آرمان به وقوع پیوسته است. حال که شاید باز هم برخی به دنبال نخشه ها بگردند و مسیر راه را بجویند. که مسیر راه تنها به اتحاد و بیداری همگان است. آنجا که از آدمیان دربند اتحادی به وسعت همه رنجیدگان ساخته شود، بیشک هر قدرتی را به زانو در خواهد آورد مسیر راه بودن و ستاندن حق در همین اتحاد خواهد بود زمین و آسمان، ماه و خورشید، از دیدن آنچه تغییر به دنیای آدمیان بود شاد شدند و به هم تبریک گفتند زمین خواند: میدانستم که فرزندم به نهایش مرا سربلند خواهد کرد خورشید پرسید آیا فکر می کنی آنان به آنچه گفتند عمل خواهند کرد و جهان را دوباره به کام قدرت نخواهند سپرد. زمین به فکر فرو رفت و آرام بر جایش ماند. تا به ندای ما همه به جانان جهان نگریستند و دنیا تازهشان را به نظاره نشستند. آزادی به قلعه عیسی دو در برابر دیدگان دیگر همراهان خواند امروز باید که جهان را آن کنیم که وعده کرده ای. باید نخوص به جانان احترام کنیم و پاسار جان آنان شویم. تا آزادی مانا و جاودان به اختیار بماند و کسی توان زایل داشتن آن را نداشته باشد. او گفت و برخی به نشانه تایید گفته هایش شعاری دادند. لیک در برابرشان بودند آنانی که فریاد زدند. نخوص باید جهان خیشتن را بسازیم و پس از آن میتوان به دیگر جانان نیز جایگاهی عطا کرد. ما از دیدن آن چه آدمیان در هم شد و به کناری رفت. خورشید سوزانتر و مشتعلتر فریاد زد، اینان برابری را از خاطر بردند، دوباره جهان را به زشتی خواهند کشاند. زمین در خود مانده بود و از شادی پیشتر از چیزی به جای نمانده، که دوباره آزادهی بر فراز قله فریاد زد. ما به آزادی هم قسم شدیم، ما برای ساختن جهان آرمانی به پیش رفتیم در کنار یکدیگر از جان گذشتیم، تا جهانی به اختیار و برابری پدید آوریم باید که نخوص پیش از آن که هر کار دیگر کنیم به جانان جهان احترام بگذاریم که احتراممان حافظ این آزادی خواهد بود دوباره هم همه هر گرفت مردمان به برتری از خویش خواندند یگانگی که از دیر باز در وجودشان لانه کرده بود دوباره سر آورد. و آرام برای آنان رجس خواند تا دوباره به خویشتن آلودهشان کند قدرت آرام آرام از زیر پوستشان میخزید و بالا میرفت میرفت تا بیشترانی را به خویشتن وادارد و در خیش فرو برد و این فریادها را به جنگی بدل سازد آزادگان برای مردم خواندند که اگر بر جانان جهان احترام نکنیم و باز آنچه از پیشتر خانده ایم را به دست فراموشی بسپاریم بیشک جهانمان به مرداب پیشترها بدل خواهد شد اگر بر جان احترام نکنیم و برای ساختن حریم او از جان نگذریم دوباره ها پدیدار خواهد شد. دوباره برتری به پیش خواهد آمد و هر کس قدرت بیشتری کسب کند یگانه خوانده خواهد شد. دوباره به چشبر هم زدنی آن نظم فاسد دیروز تصویر خواهد شد و ما را به همان منجلاب خواهد کشاند. پس این بار باید که بر آن چه از پیشتر گفته ایم، هم قسم بمانیم و تا آخر آن بنا را به پیش بریم. که یگانه راه رهایی بخش در جان آزادی نهفته است. مجادله بیشتر شد. مدام سخنانی رد و بدل میشد و زمین بیشتر به فکر رو میرفت. چندی گذشت که ماه نالان دور شد و خوابید. دیگر توانی برای گوش فرا به سخنان آدمیان نداشت. دوباره تصویرهای آینده در برابرش تداعی شد و دوباره آن نظم زشتی را در دل اینان میدید. خورشید کنان گفت: اینان اسیران قدرتند اینان را راه برای پیروزی و بهروزی نخواهد بود که روح خیشتن را به قدرت فروختند زمین باز هم چیزی نمی گفت سر در خود مدام اشک میریخت در همین هیاهو و در دل همین گفت و شنودها بود که آدمیان به یاد آوردند بر آنان چه گذشته است و چه آینده ای را در پیش دارند زمین به نگاه هایشان نظرف کند و آنان را دوباره تصویری به دور و دیر نشان داد آنگاه بود که تنی بیشتر از دیر برآمدهند و فریاد احترام بر جان سردادند از برابری در درجان گفتند و به قوهای آنچه زمین به دیدگانشان نشان داد و آنچه آزادگان فریاد زدند مردمان به یاد آوردند و نخستین تغییر جهان آغاز شد آدمیان بران شدند تا خستین خشت از بنای جهان آرمانی را همان گونه که از پیش خوانده شده بود احترام بر جانان جهان بشمارند و بر زمین نهند. زمین به جانش جانان لمس کرد و آنان را تنگ به آغوش گرفت. ماه از خواب برخواسته بود و به زمین نگاه میکرد. عشق به چشمان خورشید مانده بود و مدام آرزوی مانا برای جهان میکرد. قلم روها مشخص شد. جنگلها ها را پاس داشتند و به حفظان چه کیاه بود حمت گماردند. همگان دانستند که در مرزها و خاکشان مناطقی خواهد بود که از آن حیوانات است. سراهایی عظیم و رای در خاک آنان بود نیز به سراسر جهان خاک حیوان غلم داد شد و قوانین برای حفظ جانان جهان نگاشته شد. قوانینی برابر در همه جای جهان به هر باور و آرمان برای برابری و مانابودن آزادی، آزار رساندن به همه جانداران اهم از انسان و حیوان و گیاه به همه جای جهان مند شد. کسی را یارای آن نبود تا به هر دلیل حیوانات را بکشد. نه برای شکار و تفریح، نه برای سیر کردن خود، نه برای استفاده بردن از پوست و خونش و نه به هیچ علت دیگری. جان حیوانات مسون از هر آزار و شکنجه بود. درخت این نفس بخش جانان جهان گرامی داشته شد و فرای آنچه زیستگاه برای حیوانات بود. و درخت و گیاهان به آن زنده بودند به همه جای جهان حرمتش خوانده شد تا آنچه از آنان به جهان مانده است را ارج نهند و برای پروراندن بیشتر آنان بکوشند مناطقی برای زیستن گیاهان به همه مرزها شناخته شد و کسی را یارای قطع کردن و از بین بردن آنان نبود چه برای سوجویی و چه برای ساختن آنچه ابزار انسان خطاب میشد درخت جان بود و من آزار جان بزرگترین ارزش به دل جهان آرمانی زمین میدید شادمان لبخند میزد درختان را آغوش گرفت، به آنان میخواند که سرآخر آدمیان به راه آزادی گام نهادند و زیستن را برگزیدند حیوانات به جان درخت بالا میرفتند میجهیدند و درخت آرام آنان را نوازش میکرد به جان یکدیگر حلول میکردند و یکتا میشدند از یکدیگر و با یکدیگر بودند و این شروع آنچه جان انگاشتن به جهان بود مردمان از دیدن آنچه زیستن به دل جانان جهان بود، زیستن می آموختند و می دانستند زندگی بیشتر از آنچه پیشرفت خوانده است. می دانستند زیستن به آغوش بودن است، به طبیعت چشم دوختن است، در کنار سرو ماندن است، به آغوش زمین خواندن است و مهر را به دنیا راندن است. مردمان دیدند و مهر آموختند، زیستن دانستند و خواستند زندگی کنند. آنگاه شادمانانه بر بلندی زمین برخ سر آمدند و بر زمین پیش رفتند. به آغوش یکدیگر نشستند و با هم شدند. پرواز کردند و از زیستن جانان جهان درخشیدند و بارور شدند. زمین از دیدن آنان به خشتن بالید و بر خیش خاند که روز تغییر فرا رسیده و هیچ تن نابودی این جهان نخواهد بود. زمین شادمانانه رو به ماه و خورشید و همگان گفت: اینان فرزندان خلف من بر جهانند. زینپس به دنیا زندگی خواهند کرد بیان که آزاری به دیگران روا دارند. دیگران از گفته های زمین و شادمانی از شادمان شدند لیکن خورشید با آرامی خواند آیا زینپس آنان به کنار هم خواهند زیست؟ زمین به سرعت پاسخ گفت چه تفاوت که با هم باشند و یا در سراسر جهان پخش گردند. آنان دیگر قدر و منزلت جان را شناختند و به جان به یکدیگر با صلح خواهند زیست. ماه به میان حرفش آمد و گفت ای آن داشتم تا بر برانان ندای دهم به آرمانهای خیش زندگی کنید. از خاطران که برایش به میدان آمدید را نبرید که این بودنها به کنار هم روزی پایان خواهد داشت. انگاه که بیدار شوید و این سرمستی از جانتان دور شود به یاد خواهید آورد که رویایتان را کسی رو بوده است. آرمانتان را به آرمان خیش بدل کرده و انگاه آرامترین ایده ها به جبر همه را در خیش اسیر خواهد کرد و دوباره مظالم یک به یک سر برون خواهد داشت. ماه گفت و زمین را به فکر فرو برد که آزادگان به زمین پس از آنچه سرمسی از دانستان زیستن بود به فریاد بر همگان خواندند آرمان ها و ایده هایتان را از یاد مبرید که شما برای آنچه رویایتان بود به میدان آمدید. ما دانستیم که برای آزادی باید که به اختیار میدان داد داشتن اختیار همانا منای آزادی جهان است پس حال که سرمستی از دانستن زیستن جستهیم، به اختیار میدان دهیم تا جهان را به آزادی میهمان کند به ادامه از آن که او گفت دیگرانی خواندند که حال باید جهان را به مرزهای مشخصی درآورد تا هر که به اختیار خویشتن و همباورانش به کنار آنان وطنی تشکیل دهد و به آن زندگی کند. برخی از میان آدمیان برخواستند و فریاد زدند، ما طالب جهان بی مرز هستیم. به طول هزاران سال بران شدیم تا به مرز یک را از هم دور کنیم و در حصارهایی به تنهایی وا بمانیم. حال که ارزش زیستن را در ایم، حال که آزادی را شناخته و قانونش را پاس می داریم، باید که به کنار هم زندگی کنیم، و هران که از مرز و خطکشی را از میان ببریم. او گفت و بیشمارانی را به فکر فرو بر. بر آزادگان تاختند و آنان را محکوم به قسم قسم کردن آدمیان کردند آنان را طالب جاه و مقام پنداشتند و آنان را آلودگان به قدرت خطاب کردند فریاد میکشیدند جهان بیمارز جهانی فارغ از آن چه مرز و محدوده در آن باشد همه زیر یک سقف و در کنار یکدیگر. ما از دیدن آن چه آدمیان می‌کردند کلافه شده بود این او با صدای رساب همه خواند و اعلام کرد جهان آدمیان دوباره به آنچه ظلمت از بیشتر بود مبتلا خواهد شد؟ چرا که آنان همه چیز را از یاد بردهند؟ از آن دوربازان هیچ به خاطر ندارند و باز به تلنگری به راهی افتادهاند که هیچ تفکری در آن نیست؟ خورشید خواند: چرا اینان همار خرد رازیل داشته و بر غریزه هایشان پافه شردند؟ چرا هماره دل بران بستهند تا در کوتاه زمانی برای همه چیز راه حل جویند و آنچه سالیان به آن اندیشند را؟ فنا کنند زمین نالان گفت اینان به آنچه احساس در وجودشان است هرگاه مبتلا خواهند شد و به تکانه هایش عرش خواهند نهاد و آنچه او خوانده است را تکرار خواهند کرد اگر احساس از آنان دور شود که دوباره به آن زندگی در دیوانگی باز خواهند گشت و حال زود است برای آنکه به احساس در آیند و همه زیستن را به مبنای آن چه احساس است رقم زنند آنان حال باید به با آنچه چه خیرت شده است تکیه کنند، آن را بال و پر دهند و آنگاه که سلامت از آن راه برون آمدند شاید به آیندهش همه دنیایشان احساس شد، احساسی که به سالیان به خرد در آمیخت و به آنان راه را نشان داد. ماه گفت، امشب به آنان در جسمم خواهم نشان داد که چه به روزشان خواهد آمد، چه بر آنان گذشت و به مرور آنچه از خاطرات و آینده است شاید دوباره به ویداری فراخوانده شدند و این بار به خرد درآمیختند تا بیشتر بدانند و آن کنند که به آن عهد کردند و هر بار به جنونی از احساس آنچه برایشان تلاش کردند را از یاد نبرند تا آنگاه که شب شود و ماه برون آید آدمیان به هم خواندند و باز تکرار کردند که باید جهانی بیمار را تشکیل داد باید به کنار هم بود و با هم شد هرگاه از آزادگان کسی خواست تا چیزی بگوید، خاصه بر آنان از روزگار پیشتر سخن براند، از هدف مشترکشان بگوید و از آن چه آنان را به بند درآورده بود بخواند، متهم به خیانت شد. متهم به قدرت طلبی شد و متهم به هزاری انگشت، حتی بیشتر از آن نیز به پیش رفتند. آنگاه که یکی از آزادگان به قلهی رفت و در برابر همه آدمیان این خواند: ما آزادی را به اختیار دانستیم، و حال دوباره اگر به جهانی در کنار یکدیگر زندگی کنیم آن را به جبر واگزار خواهیم کرد در برابر باورهایی که به جان و در تار و پود ماست چه خواهید کرد؟ باوری که فرمان به برابری در اقتصاد خوانده است و باوری که اقتصاد و شکوفاییش را در برتری جستن دیده است در برابر این حد از تفاوتا چه خواهید کرد؟ مگر نه آن که دوباره باید کسی قالب و دیگرانی مغلوب خطاب شوند به هزاری تفاوتها ها که باورهای ما را ساخته است چه خواهیم کرد؟ نگاه به مجازاتی که ادهی آن را گونهی تفسیر و دیگرانی آن را به طریقتی دیگر خانده را چه خواهید کرد؟ آیا به دنیای بیمرزتان دوباره ادهی به جبر در نخواهند ماند و ادهی را صاحبان خطاب نخواهند کرد؟ به هزاری تفاوت در اندیشه هایمان چه خواهیم کرد؟ آزادی را دوباره به یگانگی وان خواهید گذاشت دوباره او را در اختیار جبر خواهید نهاد و نگاهی را پیش خواهید کرد تا جماعت بردگان و اربابان ساخته شوند حاکم و محکومان پدید آیند و دوباره نابرابری به جهان لانه کند و آزادی از بین رود آزاده در بالای کوه خواند و بر آدمیان تلنگر زد تا خام آن چه احساس سرمستی حاصل شده است نشوند و خرد روانانه نهند لیک به پاسخان که او گفته بود جماعتی بر آمدند، او را بگرفتند به سیاهچال چالوا گذاشتند و بران شدند تا او را گردن بزنند و آن کسی را که در برابر این جهان بدون مرز ایستاده است بکشند به خونش این درخت اتحاد را برویانند و جهان بیمرز خیش را تشهیل دهند به فراخور از آن چه آنان گفتند بیشمارانی نیز شوریدند و بران شدند تا آنچه چه شنیدند را عملی سازند دست به پشت گردن آزاده بردند و او را کشانکشان کشان به میدان شهر نشان نشاندند. همگان به بهت و حیرت وامانده بودند که زمین کلافه بر خود شورید و ناگاه به تکانی آنان را به خیش فراخواند. آزاده را به بند در برابر دیدگان نشانده بودند و به فرمانی خواستند تا او را گردن زنند تا او را به دار در و به گلوله ببندند. می خواستند خونش را به زمین بریزند که زمین کلافه از خورشید خواست تا غروب کند. و آدمیان را به جای میخوب وانه هات آنگاه ماه بر آسمان تابید و تصاویر را در برابر دیدگان نقش داد به آنان تصویری از ای در این جهان ساخته به افکارشان داد جهانی که دوباره جعب دران حک فرماست جهانی که دوباره جعب دران هوک فرماست جهانی که دوباره یکتایی به خود خواهد دید و بران آزادگان فریاد زدند خونشان به زمین ها ریخته خواهد شد صفره حاضر را برابر ببینند و از آنقدر بخورند و بنوشند تا همگان در گرستگی وامانند ماه به آنان تصویر خون ریخته از آزاده دربند را نشان دادند که چگونه به کشتارگاهی بدل خواهد شد هرکس علیه نظام موجود سخنی گفت به آنچه سنت از دیرباز خواندند گردن زده خواهد شد و آنچه در برابر آنان بیستد و چیزی فراتر از آنچه آنان گفتند بگوید به مرگ محکوم خواهد شد. و آدمیانی دیدند چه آینده ای گره با گذشتهشان تصویر خواهند کرد. آدمیان دوباره قدرت را دیدند و دیدند که چگونه به کوره آتش هزاری را سپردند. در برابر دیدگان دیگران چگونه هزاری را به دار سپردند. آدمیان جنازه های پرخونه بر زمین را دیدند و آنگاه زمین فریاد زد. احترام بر جانان را از یاد مبرید که اولین خون ریخته بر زمین ساختن جهانی به ظلمت پیشتر است آدمیان آزاده در بند را رها کردند و به تصاویر در ماه چشم دوختند که چگونه به آنان تصویر کرد آنچه برایش جنگیدند تصاویر در برابرشان بود آرزوهایشان را نمایان می کرد. آرزوی زیستن در جهانی که کسی فقیر نباشد آرزوی زیستن در جهانی که همش نام خداوندی شوند. آرزوی زیستن به جهانی که سرتاسرش آزادی خانده شود. و جهان و آرمانهایی که از فرد تا اصلشان هزاری تفاوت به میانه داشت. آدمیان آنچه ماه تصویر میکرد، را دیدند و به خاطر آوردند که برای چه به میدان آمدند و از چه روی جهان را تغییر دادند. برای چه ارزش تلاش کردند و آنگاه اختیار را فرا خواندند به میان آن چه ماه نمایان کرده بود یکی به فراز رفت و فریاد زد. ما باورمندان به دین یهودیت طالب آنیم که به دنیایی به باورمان زندگی کنیم. جهانی که ما با آن باورمندیم و باورمندان به ما در آن زیستند. به فریاد اویی بود که هزاری به پشتش ایستادند و برای سرزمین آیندهشان نقشه ها کشیدند. قانون و کردند، ساختار ساختند و هزاری عناوین بخشیدند تا هر کس به آن در آمده است بداند که با چه باوری در و باورمندان همراه او کیانند به چه قانونی حقوقش خواهد ستاند و به چه قانون مجازات خواهد شد انگاه که همه چیز را برابر با آرزو و امیال خیش دید به وطنش درآید و به مرز خیش بماند که اختیار به درگاه زندگی او لانه کرده تا همه از آزادی بهره برند دیگری فریاد زد ما به بیدولتی باورمندی و خواهان آنیم تا دنیایی بیهیچ حکومت بسازیم. باورمندان به دور او جمع شدند تا دنیای خیشتن را بسازند و برای پیش پردن جهان خیش و هم باوران خیش بجنگند. یک ها یک آرمان ها و باورها به پیش آمدند و به همراهی هم جهان خود را ساختند تا جهان آرمانها شکل گیرد. هر که به دنیای خیش در جهان آرمانی صاحب میهنی شود و به قانون خیش عمل کند آنچه که از قانون آنهاست بیشک مجانین، کودکان، حیوانات و طبیعت بودند و آنکه به آنان باورمنده است تابع قوانین آنان، لیک فراتر از آن همگان به قانونی که آن آزادیست پایبندند جان آن قانون آزادی یگان منجی و دلیل مانا بودنش خواهد بود احترام به جان همه جانداران و منع آزار از آنان کتاب رویا، اثر نیما فصل ششم جهان مرز بندی شد. میان کشورهای مختلف خطی رسم شد تا هم همباوران به دنیای خود زیست کنند و جعب را از میان ببرند. به طول هزاران سالان چه آدمی مرز به جهان داد همه به جعب بود. آنچه خدکشی به دور خود کردند همه به قوت زور و با شمشیر آخته سربازان در جنگ بود فاتحان مرزها را در نوردیدند و دنیای را مالکانه تصرف کردند آنگاه با آنچه قدرت در اختیار داشتند دنیا را مرز بندی کردند و این مرزها وطن مردمان شد بهمانند مانند آنچه دین و باور خطاب شده بود همه چیز را به ارث و بیان که خرد در آن نقش ایفا کند، به یکدیگر سپردند و مرزها هر بار به قدرت زورگویی دوباره تغییر کرد. گاه کوچک شد و گاه به عظمتش با خون ریخته بر زمین افسوده شد و دنیای جبرالود آدمیان ادامه کرد و مرزها را بزرگ و کوچک کرد. لیک این مار آدمیان بران آن شدند تا به اختیار مرزها را تشکیل دهند. بران شدند تا جهانی بسازند که همه چیزش به اختیار خیشتنشان باشد. این گونه بود که آرمانها هر کدام صاحب میهنی شدند و مرزها را رسم کردند. اما این بار نه به خون و کشتن. نه به و در اختیار زورمندان این بار آدمیان به اختیار بران شدند تا مرز خیش را ترسیم کنند. تا به باورها و ایمانشان مملکت خیش را بسازند و هموطنان در کنارشان نه به و ارس که به ایمان و اعتقاد با آنان همراه شوند جهان آرمانها شک گرفته بود و دنیاهای تقسیم به آرمان های گوناگون شد بر آن خرد بسیار کردند بر سرش مباحثات بسیار رفت چگونه قسمت کنند کدام بخش از زمین به کدام گروه برسد و چگونه این چینش ها را محاسبه کنند به سر این جدال ها با هم نشستند و به آرای جمعشان نظر انداختند که همه برابر باید دران شرکت می جستند. آری بسیار جدال ها به پیش آمد و هر بار روزا را دگرگون و گاه وخیم کرد. بر سر منابه جدال بود بحث می برسر بر سر زیستن در خاکی که برخیان را خوشاب و هواتر می پنداشتند. بحث بود. بر سر زبان و نجات ها و خاک های دیرین جدال می شود. به هر بار هر کدام از این قسم ها به راه حلی پاسخ خفته و مانع از برابر برداشته می شد. مثلا آنگاه که جدال بر سر منابع زمین بود و کسی به توافق نمیرسید زمین به میان جدال آنها رفت و گفت آنچه در زمین است برای همه شماست. آن را به اختیار شما گذاشتم تا برابر میان خیش تقسیم کنید. و اینگونه بود که این جدال ها به پادرمیانی زمین از میان رفت یا بار دیگری که بر سر خون و نژاد و خاک هجدادی بحث به میان آمد آزادگان فرا خواندند تا هر که به این نگاه باورمند است به پیش آید و اولویت نخست خود را برگزیند. مثلا شاید کسی به نگاهی ارفانی باورداشت و در کنارش خیشتن را متعلق به خاکی میدید. اولویت باورش کدام بود؟ به همان اولویت سرزمینی برمیگزید و مجادله خاموش میشد. اما قائل تنها به آنان ختم نشد و بودند آنانی که خاک اجدادی را به هیچ طریقتی در اختیار دیگران نمی گذاشتند. آنان برای این مرسا که به خون هر بار گشوده و بسته شده بود ارج می نهادند و خیشتن را از اجدادی در آن خاک می پنداشتند. جدال بر آنان بسیار رفت و آنجای که توان بود تا آن خاک به همان باورمندان به تعداد در خورشان وانهاده شود وانهاده شد. و انگاه که تعدادشان کوتاه و اندک بود، خورشید برایشان تصاویری از دور باز داد و به آنان فهماند که اگر به طول این مرزهای های کهان دل بندید، برایش پایان نمیتوان تصور کرد. روزی را نشان داد که سرزمین کهن به نیمی از جهان حکومت می کرد و آنان را فرا خواند تا آنچه یگانگی و قدرت فرا خاند را به دور نهند و به زیستن نظر افکنند. جدال بود، هر بار بود و هر بار به بحث ها آدمیان بران بودند تا یکدیگر را مجاب کنند و سراخر هر چه درگیری که در میان بود توانستند مرزها ها را این بار به خرد جمعی نقش دهند و همگان را به اختیار صاحب مملکت کنند. زمین و آسمان، خورشید و ماه، دریا و کوه، ستارگان و جنگل همه نام جهان آرمان ها را فرا می خوندند و به یکدیگر لبخند می زدند. که فرایان چه آدمیان به طول هزاران سال به زمین و بادیگر جانان کردند سر توانستند از آن چه خرد در وجودشان خوانده شد بهره جویند و جهان را به آن چارزوی زیست است بدل کنند آنان به مرزهای ترسیم شده بر خردشان نشستند و به آوای جان گوش فرا دادند. که برای پاسداشت از آزادی باید که جانان جهان را آزار نکرد آزادگان به میدان درآمدند و در برابر دیدگان فریاد زدند آنچه عامل آزار دیگران است را باید که از میان برد. باید که به کسی حق داشتن از آنچه به مرگ فرامی خاند را نداد. ها را به آتش سوزاندند. همه را نابود کردند تا کسی به مرزهایش صلاحی سلاحی به اختیار نداشته باشد. اما در برابر آنچه آنان کردند بودند کسانی که لب به اعتراض برآورند و در برابر آنان بستند چگونه میتوان بی هیچ سلاح در مرزی بنشست و انتظار آن نداشت که در دور سباهی مورد حمله دیگران قرار گرفت آنان که این گونه میخواندند بر آن بودند تا دوباره سلاح در اختیار گیرند و به نام دفاع به ساختن بمبها و انبار کردن موشک و دیگر ابزار مرگ بپردازند و دوباره همان تصویر دنیای را به نمایش گذارند به جدل در برابر آدمیان به هم گفتند و از هم شنیدند. برخی به داشتن سلاح دیگران را ترغیب کردند تا به آنچه نام دفاع است سلاح ذخیره کنند و برخی به نابودی سلاح ها کمر بستند. جدال ادامه می کرد که کسی خواند به یاد روزگاران دور بیفتید. آنجا که ما برای دفاع سلاح ساختیم و انبار کردیم. آن توان که در اختیار بود تا زندگی ببخشد را به کام مرگ فرستادیم و آنگاه که به ساختن هزاری اصله قدرت را به اختیار دیدیم، حمله کردیم، جبر نشاندیم، تحمیل کردیم، به برتری چشم دوختیم، یگانه شدیم و روح را به اختیار قدرت وانهادیم. امروز باید که سلاح را از میان برد، باید که به نابودی آن کمر همت بست که این اسباب نابودی به جهان ماست؟ در برابر او که اینگونه خاند کسی گفت چه کسی توان تزمین زیستن ما به صلح را خواهد داشت. آنگاه که هیچ برای دفاع از خود در اختیار نداشته باشیم. او گفت و به پشتوانی از او هزاری تکرار کردند تا آنجای که دریای خروشان به بر آنان خواند که باید برای محافظت از خود بیندیشند. باید برای پاسداش از آنچه آزادی نام نهاده‌اند اندیشه کنند و آن ساختن جایگاهی است که از ارزش جان و آزادی دفاع کند موج گفت آدمیان را به فکر فرو برد تا کوه به استواری همیشگیش فریادکنان بر آنان بخواند سازمانی تشکیل دهید تا پاسبان آزادی و جانان جهان شود، تا بی‌हिست و در برابر زورگویان از شما دفاع کند در ادامه سخن او بود که دیگرانی از انسانها خاندند آری باید که سلاح را از میان بریم. باید اجازه ندهیم تا هیچ کشوری به سلاح دسترسی پیدا کند و باید سازمانی برای دفاع تشکیل دهیم. یکی به میان حرفش آمد و گفت ریاست چنین سازمانی در اختیار گیست. همگان در فکر فرو رفتند که صدای درختان پیر به آسمان رفت. آن را به اختیار آرای امومتان قرار دهی. آنان که طالب نگهبانی از آزادی به سراسر جهان باشند به این سازمان در خواهند آمد و با آرای عمومتان خواهند توانست تا از همگان دفاع کنند. درخت این را گفت و آزادگان برخواستند و خواندند باید که این قدرت را مهار کنیم. باید که بر آنان هزاری ناظران قرار دهیم تا در برابر آنچه چه خود از آنان است بیستند و ایستادگی کنند. باید چندین برابر آنان که نظر و رأی میدهند ناظرانی بر آنان بگماریم و برای تصمیمات خطیر به آرای عموم مردم جهان بنگریم. باید این قدرت را مهار کرده تنها به اختیار برای رفع آنچ زشتی بگماریم و آن کنیم که آرزو کرده ایم. همه گفتند و با آنچه گفته شد افسودند تا سازمانی برای تامین جانان جهان تشکیل شود، تا در برابر هر زشتی بیستد و نگذارد تا نظام فاسد دیروز به جای بازگردد آنان مدام خواندند و بران چه خواندند اصلاحات کردند تا تغییر کند تا هر بار بهتر شود و بیشتر به پیش رود آنان سازمانی تشکیل دادند تا در برابر هر کس که خواست جان جانداران را آزار کند بیستد اگر قومی بران شدند تا سلاح به سازند و به دیگران حمله کنند در برابرشان بیستد اگر از قوانین عمومی که همه بر پایه آزادی بود کشوری تخطی کرد، سازمانی در برابرش بیستد و حق مظلومان از ظالمان باز سداند. قانون آزادی مدام تکرار می شد. از من آزار به دیگر جاندارا می و از اختیار می خاند. از اختیاری که کسی یارای به جعب خواندنش نداشت و سازمان باید که این اختیار را حافظ بود. سازمانی متشکل از تمام کشورها به آرایی برابر به تعداد هم باوران گرد آمدند. سازمانی که قدرت داشت. تنها به سخن اتکانه می هرچند که سخن راهگشای گشای نخست به میان تمام مجادلات بود. آنگاه که آزادی را اددهی به تاراج می بردند آن سازمان ایستادگی در برابرش بود. ایستادن و تغییر آنچه نابودی آزادی می خاندند. سازمان به آرای عموم تشکیل شد. سندلی هایش را بیشمارانی گرفتند تا به رعی عموم پاسدار جانان جهان باشند. در برابر آنچه تحمیل و جبره است بیستند و آزادی را نگهبان بمانند. به کنارشان بیشمارانی بودند تا بر آنچه آنان کردن نظارت کنند. تعداد آنان به مراتب از نشینان بیش بود و به خدای کوچک آنان را برکنار میخاندند. این گونه بود که قوایی برای پاسداشت از آزادی در جهان تشکیل شد. قوایی نیرومند برای حفاظت و پاسداشت جهان ها. زمین شادمان به دیگران گفت: ببینید که فرزندانم چگونه جانان جهان را پاسدار شدند. ببینید که چگونه در برابر ناملایمات ایستادند. اگر کسی به جهان در سرزمینش بران شد تا صلاحی بسازد، آنان در برابرش خواهند ایستاد و حق چنین کاری به او نخواهند داد. اگر هر باوری بران شد تا به زور شمشیر باورش را بر دیگران تحمیل کند و آزادی خیشتن را برای آنان بخواند، آنان در برابرش خواهند ایستاد و اجازه چنین کاری به آنان نخواهند داد. اگر کشوری بران شد تا به کشور دیگری حمله کند، برای تحمیل باورها، برای نشان دادن قدرتش، برای بزرگتر کردن مرزها و یا به هر دلیلی سازمانی ایستاده است تا آنان را به جای خیش بازگرداند. اگر آدمیان بران آن تا حقوق گیاهان و حیوانات را باز ستانند، آنان را به کام مرگ برند و یا حریم آنان را لگدمال کنند، آزادگان در برابرشان خواهند ایستاد و اجازه چنین کاری را بر آنان نخواهند. دار. زمین گفت و به داشتن این فرزندان و نظم ساختهشان به خود بالید که خورشید به نجوایی در برابر او خواند. امید برام بستم که به این نظم نوین دوباره درگیر به قدرت نشوند و روح جانشان را در اختیار او وانه گذارند ماه به نشانه تایید سری تکان داد و دریا خروشان به آنان گفت آنان این بار به مهار قدرت بر آمدند. آنان نازرانی به مراتب بیشتر از قدرتمندان با گزاردند. تا بر اعمال آنان نظارت کنند تا بدانند آنان چه می کنند و به هر خطای کوچک و بزرگ آنان را از وظیفه دور بنشانند همه به هم نگاه کردند و در میان دیده‌هایشان دیدند که آدمیان این بار برانند تا جهانی به زیبایی آزادی بسازند و به هیچ رویه از آن دور نشدند هر بار به پیشروی در این راه هممت گمارند و در هر راه نرفته ای را به پیش شیرند تا برای نگهبانی از آزادی راههای های تازه ای را بسازند و این ارزش والا را مانا و جاویدان سازند آدمیان به تکاپو بودند و بر جهانشان افسودند تا جهان آرمان در خیش نماند و به حرکت به پیش رود پس از آنکه جهان آرمان ها تشکیل شد و مرزها شکل گرفت حیوانات و گیاهان و جانان جهان پاس داشته شدند نوبت به کودکان رسید همه پرسیدن به سر کودکان جهان ما چه خواهد آمد؟ ما امروز به با آنچه باور داشتیم رسیدیم و برای آن از جان گذشتیم. ما به میدان آمدیم و آنچه از زشتی بود را کن کردیم. ما نظم تازهی را پای ریزی کردیم و حال می توانیم به باور خیش زنده بمانیم. اما چه به روز کودکان خواهد آمد؟ آیا قرار بر این است تا آنان به ارث آنچه ما اندیشیده را به دوش بکشند؟ آیا قرار بر این است که به نظم دور آن کنند که گذشتگان کردند و محکوم به زیستن در خاکی شوند که در آن زاده شدند؟ دیگری از آدمیان به پیش آمد و گفت اگر منی که امروز به باوری نظر افکندم فردا باور دیگری را برگزیدم یا رای آن را نخواهم داشت که به این تغییر مملکتم را تغییر دهم؟ آیا دوباره محکوم به آنچه چه برگزیده ایم خواهیم بود؟ آنچه تغییر رئیس را ارتداد خواهیم خواند آدمیان به تفکر نشسته بودند و به دنیای در پیش رویشان چشم دوختند که کسی از آنان برخاست و خواند ما در برابر جبر ایستادیم و اختیار را فراخوانی چگونه میتوانیم به ارث بردن ارزش بخانیم در صورتی که معنای جبر جهان است ما اختیار را فرا میخوانیم که آزادی در آن نهفته است زمین مسرورانه به آنان نگاه می کرد و از گفته هایشان لذت می برد. به خود می و هر از چندگاهی نگاهی به خورشید می کرد. خورشید هم دیگر حرفی برای گفتن نداشت. تنها به گفته های آنان گوش فراداده بود و دیگر یقین داشت که آینده ای روشن در انتظار آدمیان است. در میان همینان بود که یکی برخواست و خواند اختیار بر ما می خاند که حق زیستن را به آنان واگذاریم. بودگانی که به فردایی دارای قدرت تشخیص خواهند شد آنگاه است که آنان را توان انتخاب خواهد بود آنان خواهند توانست چون ما باوری برگزینند و به باور شناخته شده میهنی داشته باشند همه به گفته های او نظر کندند و به فکر فرو رفتند تا کسی خواند چگونه آنان را یارای این خواهد بود که همه باورها را بشناسند و در میان آن به بزرگسالی انتخاب راه کنند در پاسخ به او دیگری خواند دنیای امروز ما به مانند گذشتگان نیست و بسیار طریقت خواهد بود تا آنان به باورهای گوناگون راه یابند و فراتر از آن میتوان به کلاس درس ساعتهای اختصاص داد تا باورها از راه و طریقت خود بگویند قانون و فلسفه وجودشان را به کودکان بشناسانند و آنگاه که به سن انتخاب رسیدند خیشتن مختار به انتخاب خواهند بود همه او را تحسین کردند و دانستند، آنگاه که اختیار را حرمت نهند، آزادی راه خیش را هموار خواهد کرد. همه به اندیشه کودکان بودند که یکی فرا دیگران را و دوباره پرسشش را تکرار کرد. آیا به نظم تازه ما ارتداد راهی خواهد داشت؟ آیا محکوم به زیستن در جهانی که را یکبار انتخاب کرده ایم خواهیم بود؟ این بار به پاسخش خورشید خواند شمایان مختار و آزاد به جهان خواهید زیست و هرگاه که خواستی توان دور شدن از باور و رسیدن به باور دیگر را خواهید داشت این اختیار معنای آزادی است در برابر آنچه خورشید خوانده بود برخی گفتند و اگر او بعد از ارتکاب جرمی برای گریز از جزایی که به آن ایمان داشته چنین کرد چه باید گفت و چه باید کرد؟ همه به فکر فرو رفتند تا دریا به موج خروشانش آنان را به عدالت فرا خواند آنان را خاند تا به سازمانی برای حفاظت از آزادی بنا کردند، سازمانی برای حفظ ادالت بنا کنند و آنجایی بود که بیشماران فریاد زدند. جهان آرمانهای ما ساکن نخواهد بود. هر بار بارورتر خواهد شد. این جهان جهان پیشرو لقب خواهد گرفت و هر بار به ایدهای برای بهبود آن تلاش خواهیم کرد. جهان آدمیان اینگونه شد که کودکان را کسی حق به جبر نداشت و آنان مسون از مجازات بودند آنان به کلاس درس و به اختیار و علاقه خیش می توانستند در تنهایی و به جمع از همه باورها بدانند و انگاه بس... که به سن تشخیص رسیدند انتخاب کنند که به چه ای وابستگی دارند و زندگی را در کدامی باورها جستند فرایان هر کسی را چنین اختیار بود که در طول عمر به شناختهای تازهش راه تغییر دهد و باور تازهای را برای زیستن برگزیند و انگاه که خاص از کشوری به کشور دیگر برای زیستن نقل مکان کند مختار است فراتر از آن جهان آدمیان به خود سازمان دیگری دید که برای عدالت دایر شد دایش شد تا در کشورها و به باورها اگر کسی دایه آن بود که حقوقش را پایمال او را مورد ظلم قرار دادند، او را به ادالت خانه فراوه حرفهایش را بشنود و مدارکش را زیر و رو کند. آنگاه حکم ظلم را بشکند، از میان ببرد و عد را میهمان جانان جهان کند. سازمان های آنان هر بار به پیشرفتی برای بهزیستن همگان دایر شد، آنان به قانونی یکتا ایمان داشتند و آن آزار نرساندن به دیگران بود و برای ساختن هر سازمان به چارچوبی باور داشتند که آن مهار قدرت به آرای عموم و تقسیم و تخصیت قدرت بود به کمک از آن چه ناظران خطاب می شدند. آنان از زشتی قدرت خانده و دیده بودند و هر بار برای مهار این دیو بدسیرت طریقتی می تا دیگر حاکم به دنیا آنان نشود. جهان آرمان‌ها به تکاپوی آزادگان به جهان بود و هر بار نیرومندتر آنچه از سنت های فاسد پیشینیان به راه جبر و تحمیل بود از میان می‌برد به پیش می‌رفت دنیایی را هیچ صاحبی نبود نه کسی بر آسمان بر آنان حک میراند و نه کسی بر زمین خیشتن را فرمانده میخواند. آنان برابر به روی خیش بودند و در کنار هم میزیستند، اما نه به افسانه‌ای دوردست که نهایش دیوانگی را نشدد این بار به کنار هم به صلح میزیستند با قبول آنچه قانون آزادی بود کسی را به جبر به بهش نمی بردند و کسی را به تحمیل به راه کمال فرا نمی خاندند. اگر قومی بران بود که با ریاضت به رسکاری خواهد رسید به دنیای خیش مختار بود اگر قومی داشت که آزادی در بند خدایان بودن است محترم شمرده می شد به هر باور به هر قانون که مینوشت آنان که به دانستن آن با آن بودند را محترم میشمرد. تنها حافظانی بودند تا کسی را به تحمیل در خویش فرا نخوانند کسی را به بیعدلی از میان نبرند و جمعی را به جبر به باوری نرانند دنیای صاحبی نداشت کسی خویشتن را مالک به دنیای کودکان نمیدید تا برای آینده آنان تصمیم گیرد تا به جای آنان بیندیشد، فردای آنان را بسازد کودکان اختیار داشتند تا به فردا آن چندی را عملی سازند و به دنیای خیش زنده بمانند. دنیا صاحبی نداشت و کسی مالک به جان حیوانات و گیاهان نبود. همه جان بودند و به این ارزش والا برابر به زیستن میزیستند آزاد بودند. کسی را یارای از میان بردن و به اصارت کشیدن و آزار دیگران نبود که دنیا حامی برای آزادی خیش داشت. به جهان آرمان ها مشکلات بود، بمانند آنچه که مشکل برای تقسیم کشورها خوانده شد، گاه زبان به پیش آمد و خودنمایی کرد. اما آدمیانی که به باور زنده بودند که به لالای آزادی گوش فرا داده صاحب بودن را از میان برده و اختیار را حاکم کردند در برابر این مشکلات ایستادند و هربار، به نجواهای ماه و خورشید، آسمان و دریا، زمین و ستارگان خیشتن و دیگر جانان گوش فرادادند تا هیچ مشکلی در برابر نماند و دنیای را آرمان آنان پر کند. آرمانی به زیبایی آنچه آزادی خانده ایم و به شکوه آنچه جان فریاد کرده ایم. کتاب رویاه اثر نیما شه سواری، فصل هفتم جهان آرمانها رویایی بزرگ و عظیم به جهان بود و حال واقع تر از هر واقعیتی در جهان پیش می رفت. همگان به دنیای چشم میبستند و خیشتن را به جهانی در اختیار تصویر می آنچه حتی دورتر از محال بود به واقع نشست. به فریادها، به ایستادگی و تلاش به درمیان بودن و از پای ننشستن، به تقیان و یاغییری به نماندن در درجای در برابر آنچه ظلم خطاب شده است و به ایمان برخیشتن زمین لالای آرامی برای جانان جهان در آغوشش میخواند برایشان از زیستن میگفت و آنان را به مهر فراه میخواند به دل جنگل حیوانات جس و خیز میکردند بی آنکه بهراسند از آدمیان بی گلوله ها به جانشان میهمان شود بی آنکه به بند درآیند و در غفص روزگار بگذرانند. بی آنکه مادران از کودکان و کودکان از آنان جدا کنند. بی آنکه زیستگاهشان را به نابودی بکشانند و بی آنکه خیشتن را مالک برانان خطاب کنند. درختان با شکوه تر از پیش به جهان نفس ارزانی می دادند و زندگی می بخشیدند تا همگان به آنچه اندیشیده زندگی کنند. آدمیان به دور از آن چه تحمیل خانده شده بود به رویای خود میزیستند. کسی آزادی را برای آنان تعریف نکرد و آنچه چه خیشتن آزادی نام نهادند را گرامی داشتند. بیان که دیگری را آزار دهند. آزار ندادن را ارج نهادند و اختیار را به آغوش گرفتند و اینگونه بود که آنان به جهانی در آرمانهای خیش زیستند و هر بار آزادی را آنگونه که خیش باور داشتند تصویر کردند. خورشید از دیدن آن آدمیان به جهان ساختند بخت زده بود هر بار به نزدیکی آنان می رفت تا بشنود چه می گویند یک را چه خطاب می کنند و چگونه جهان را می نگرند خرشید نزدیک می رفت و به میان گفته های آنان می دید که چگونه از الفاظ دوربازان خیش دور ماندند و یکایک را جان خطاب می کنند بر ارزش جان یکدیگر ارج عرج می نهند و زیستن را گرامی داشتند آنچه به دنیا را زیبایی میپندارند و برای نشر زیبایی های دنیا به تلاش آمدند. خورشید، ماه، دریا، کوه، زمین و آسمان هر چه به جهان بود از زیدن دنیای تازه جانان به خود میبالید و جهان آرمان ها به قلب رویا بدل به واقع شد و جهان را به خود ساخت. اما جهان آرمان ها به جای نماند که کسی آن را یگانه نخواند. کسی آن را تنها راه حل ندانست و خواست تا باز به پیش رود دوباره احیا شود هر بار به تکاپو بهتر و بهتر گردد و راه را به پیش رود جهان ها جای دوباره زیستن بود جای تغییر و دوباره خواندن بود اگر کسی به ای مردمان را فرا به زیستن به باوری تازه کرد او را ارج نهادند و به او میدان دادند تا به ایمان بر های جهانشان آنچه باور تازه است را به جهان دهد. و برای ساختن میهن و هم میهنانش راهدار شود کسی را یارای آن نبود که به جعب دیگران را به کار وانهد و یا آنکه سخن از آزار دیگران کند و بر آزار دیگران باوری پدید آورد آنچه از آزادی برای بودن و ماندنش قانون خواندند را همگان پذیرفتند آنچه دوری از مالک بودن بود آنچه به اختیار وانهادن بود آنچه به منع آزار دیگران بود آنچه قانون جهان آرمان ها شد به قبول آن چهارچوب جای باز شد تا باز به پیش روند و دوباره راه های تازه را به پیش گیرند و در جای نمانند جهان آرمانها فصل الختام نبود و پایان دنیای نام نگرفت تنها باور به آنچه قانون آزادی بود را به همه جای نسب کردند و آن را به آموزش بر همگان آموختند به هر جای جهان که زاده می بودند معلمانی که به تو بخوانند، آدمیان به پیش از جهان آرمان با خود و دیگران چه ها کردند چه جنگ ها را پای ریختند و چگونه به تمع قدرت یکیگر را دریدند چگونه در برابر آن چه آزادی بود ایستادند و به جبر همگان را واداشتند چگونه ریشه از اختیار بردند و چگونه آزار رساندن را به تقسیمات بیشمار ارزش خواندند؟ کسی بود تا به کلاس های درسی از این ارزش والا، از آزادی یه گان منجی جانداران سخن میگوید برابری را به آدمیان فرا بخاند قانون پاک آزادی را به همگان بیاموزد و بر آنان بخاند که گان راه برای داشتن و مانا بودن آن آزادی خوانده‌اند آزار نکردن دیگران است دنیایی را تصور کرده‌اند که در آن هر کسی هر چه خاص را به پیش برد اختیار داشت و خواست آن کند که خیشتن آرزو کرده است لیک بی هیچ قانون در برابر او رفت و در پیش هر که در برابرش بود ایستاد را به تیغ تیز سپرد او مدام بر همگان می که آرزوی من به جهان همین است که کردم آزادی من به جهان از دم تیغ گذراندن همگان است مرا اینگونه به اختیاروانها دیید آدمیان را به دین تصویر رساندند و آنان دیدند که در چشم برهم زدنی دوباره قول قدرت بیدار خواهد شد و آنکه قدرتش بیش باشد آزاد تر خطاب خواهد شد. بر آنان خواندند اگر آزار را من نکنیم و آن را قانون آزادی نپنداریم آزادی حاکم بر جهان ما نخواهد بود. آزادی را به قدرت خواهیم فروخت و دوباره برابری را لگدمال خواهیم کرد. اگر به هر قسم خواستند این آزار رساندن را تقسیم کنند و دیگرانی را در دایره آنجا جا نهند و دیگرانی را از آن دایره دور کنند بدانید که دوباره همه چیز را به قدرت فروخته و در بند آن خواهیم بود. معلمان به کلاس ها برای آدمیان خواندند به کودکان گفتند و آنان را بیدار کردند تا منزلت آنچه پدید آوردهاند را بدانند. به کنارش برای آنان از باورها خواندند. از باورهایی که به جهان بود، از باورهایی که آزادی را برای خیش تعریف کرد، دیگر به مثال دوربازان نبود که کسی به جعب آزادی را در حصار تن ببیند و دیگران را به این حصار فرا بخواند و در برابرش باشند آنانی که تمسخر کنند آزادی در حصار آنان را. هر باور که خواست دیگران را به خیش فرا بخواند مختار بود، و آدمیان به اختیار توانستند از آنچه برایشان خانده شده بود بگذرند یا بدان ایمان آورند خواستند دوباره از آن بگذرند و دوباره به باور دیگری ایمان آورند و خواستند بی ایمان به جهان بی ایمانان زندگی کنند آخر به جهان آرمانها بودند آنانی که به هیچ باور نداشتند آنان به دیار خیش زنده بودند و همگان دانستند بی باوری نیز گونه ای از باور است آنگاه که دیاری بران شد تا به صلاح صلح جهانیان را به خطر اندازد و به جبر جهان را به کام خیش فرادهد سازمان به قدرت عوام در پیش بود تا در برابر آنچه ساخته است بیستد. بود تا آنچه ساخته است را ویران کند و در برابر آنچه وقوع جنگ در آینده بود راه چارهی بیندی شد و پیشگیری کند و از وقوع فاجعه در راه مردمان را در امان بدارد. به دل جهان آرمان ها جای برای تغییر هماره در پیش بود آنچه را قدرت فراخاندند هر بار به ایدهای تازه کمرنگ تر و کمرنگ تر می شد بودند آنانی که به دل و جان بران باشند تا این جهان زنده به تلاش آزادگان را دوباره زیبا کنند به فکر فرو روند و در برابر آنچه زشیست بیستند آنان به خلوت به آغوش زمین در مهر فرا خوانده از جانان جهان به فکر رفتند و هر بار به اندیشه ای آنچه جهان پیش بود را به پیش رفت فرا خواندند اما این بار پیش رفت به ساختن ابزار تازهی نبود به زیستن در مهر بود. به جان بخشیدن و جان را گرامی داشتن بود. به برچیدن آنچه تحمیل خواندند بود و از میان بردن صاحب خاندن بود. آزادگان باز به جهان زیستند، باز به تفکر برای پیش بردن جهان اندیشیدند، همه اندیشیدند، اندیشیدن را پاس داشتند و همگان را به تحقل خواندند. به تفکر و دانستن تشویق کردند و چندی نگذشت که همگان از آن چه دانش بشری بود دانستند که باید میآموختند. باورهای جهان نه به زور و تحمیل، نه به قدرت و در تکبیر، که به آنچه خواند به آنچه عمل کرد و به آنچه باورداش بیشتر و بزرگتر شد. این بار نه کسی باوری را ترد کرد، تکفیر کرد و ناروا خواند، نه کسی برای نابودی باوری تلاش کرد. نه میهن دیگران را خراب کردند تا به تحمیل آنچه خیش خوانده و آرزو کردند را به آنان بفروشند. نه آزادی را تحفه به کسی دادند و نه به جبر آنچه تحمیل بود را آزادی خواندند. این بار هر باور که نقصان به دلش بود، هر باوری که یارای مدد رساندن به هم باوران نداشت، آنان را راضی نکرد و آنچه گفت را به دروغ و فریب پیوند داد، ناملایمات کرد و ظلم پیش برد، محکوم به نابودی شد. از میان رفت و به اختیار آدمیان آنچه از آن بود را از میان بردند. کسی بر آن باور نداشت و دیدند که در طول مدتی دیگر از آنچه باورهای پیشینیان است چیزی باقی نمانده و همه به کنار رفتهاند. باورها غربال میشد، هربار به دانستن آدمیان، هربار به ایمان آنان و به آزمون و خطای خودشان از میان رفت و یا بیشتر و بیشتر شد. ملاک و میار باورها ایمان بر آنان بود، اما نه این بار به زوق و شوقی از وراست در باورها. نه به زور و جبر در ارتداد، نه به فریادها و گلدوریها، نه به ترویج دروح و فریب به تبلیغ ریا و هزار توی از انکار، این بار با آنچه آدمیان دیدند و خیشتند با آنچه لمس کردند قضاوت کردند. باورها غربال شد و برخی از میان رفتند. برخی باورمندان بیش داشتند و بیشتر شدند و اینگونه این بار به دانستن خیشتن باورمندان باورها از میان رفت و پررنگ تر شد. جهان آرمانها مشکل فراوان داشت. در آن شک نبود که تنها کار انجام نشده بیه بست است. لیک آنان که به داشتن این جهان تلاش کردند از جان گذشتند و برای فیروزیش به میدان بودند آنان که در شک این جهان نقش داشتند و از آیندگان خطاب شدند به میدان آمدند تا آنچه مشکل به دنیایشان بود را مرتفع کنند جهان آرمانها قدسی نبود بلا تغییر و یگانه خوانده نمیشد، توانان بود که همگان به ایدهها و آرمانها به پیشرفت جهانشان تلاش کنند آنچه نزب خانده را تغییر دهند و هر بار از آن را پایه بریزند کسی را از تغییر باکی نبود که برای در امان داشتن قدرت خیش تلاش کند قدرتی در میانه نبود و این بار اگر قدرت خانده شد تنها به عاملی بدل شد تا آنان را حافظ شود به دست بی سپرده شود تا نگهبان جهان آنان باشد این گونه بود که کسی به تمه از قدرت و یا برای پاسداشت جاه و مقامش در برابر آنان که تغییر را فراخاندن نیستاد و جهان آرمانها باری به ایدهی مشکلش از میان رفت و باری به آرمانی تازه دگرگون شد و پیش رفت گرد آنچه بلا تغییر بود محترم شمردن جانان جهان بود برداشته شدن جبر و به اختیار خواندن آزادی بود صاحب نبودن و از بین بردن یگانگی بود قدرت را به تقصید خواندن و به عاملی بدل کردن بود. ارزشهایی بود که آزادی را فرامی خاند و برای بودن شرط لازم بود. اینگونه بود که همگان به تغییر درآمدند و به آنچه تعلیم بر چوب ها خانده شد گوش سپردند. جهان بیمرز در دوردستها، آنچه رویایی در خیال بود نیز به باور آنان توان وقوع داشت. روزی در میان جهان آرمان ها خورشید و زمین که حال آرام بودند آنچه باید میکردند را به پیش می بردند و تمام افکارشان گره به آینده آدمیان و حال اصفار آنان نداشت به یکدیگر نظر کردند و با هم هم کلام شدند خورشید به زمین گفت خاطرت هست در دور زمانی چگونه آدمیان به جان همگان افتادند آن چه زندگی بود را از یاد بردند زمین به نشانه تعیید سری تکانداد و خورشید در ادامه گفت آیا باور می کردی که روزی این گونه به صلح در آزادی به کنار همزیست کنند؟ زمین با شادمانی رو به خورشید گفت هاری هماره می‌دانستم که آنان روزی آن چه سعادته است را به دست خواهند آورد روزی که بدانند تنها خیشتنشان راهگشای جهان خیش هستند خورشید به میان حرفش آمد و گفت اما آن روز تغییر که همه آنان بدان چه تو خانده ای باور نداشتند زمین گفت آری برخی آنچه آرزو میکردند را به دیگران محصول کردند و در انتظار آنان ماندند. لیک آنچه دنیا با آنان کرد و آنچه فریاد آزادگان بود آنان را نیز به خود فرا خواند و به آخرش همه دانستند که باید به عزم خیش جهان را دگرگون کنند. خورشید با سری که تکام می داد گفت اما آنان پیشتری هم به قدرت خیش پی بردند و دیوان وارتر از آنچه پیشترها بود کردند. زمین گفت: آری، لیک آنجای آنان را به جان هرجی نبود. آنان به برتری وامانده بودند و به قدرت خدمت میکردند. اما این باور به خیشتن این بار به جان گره خورد و این ساخت که دیده‌این. خورشید گفت: دوست ندارم روزی از آتشم کم شود و مرگ جهان را فراگیرد. یا آنکه آنقدر به زمین نزدیک شوم که جهانیان را به مرگ فرا بخوانم. اگر این گونه شد پیش از نزدیک شدن خودم را از میان خواهم برد که اینان به زیستن در آمدند و نباید که مرگ آنان را جزا کرد زمین گفت دیگر نگران آن نیستم که روزی آنان خواهند مرد و مرا نیستی فرا خواهد گرفت این بار شادمان از آنم که آنان روزی را به بهزیستن زیستند و مهر را به آغوش گرفتند حال که درازای این بودن کم بود یا فرا ما را چه سود؟ زیستن هزاران ساله به جبر از مرگ كم سختتر است زمین در ادامه رو به خورشید پرسید آیا دانی پس از این جهان و جانان شگونه خواهند زیست خورشید گفت نمیدانم اما از این مطمئنم که دیگر به آن آینده شوم باز نخواهند گشت اگر به پایان به مرگ درآیند یکدیگر را درمان خواهند بود به مدد دیگران برخواهند خواست و جان را پاس خواهند داشت حال چون که من به آتش درایم و دنیای آنان را بسوزانم و یا یکی از دوستانت راه گم کند و به تو حساب کند زمین گفت آری آنان زیستن و مهر را فرا خاندند. جان را پاس داشتند و به برابری در آمدند می دانم که آیندهشان روشن خواهد بود و آن تصویر که هماره بر دلم نقش می‌بندد روزگاری است که آنان به مهر در کنار هم هیچ مرز زندگی کنند آنگاه که زمین از آینده جانان جهان می‌گفت بودند بسیاری که به جهان بی‌مرض میاندیشیدند نه به آن دوران در رویا که به امروز جهانمان نیست هستند کسانی که به جهان بیمرز اندیشیدند جهان را میتوان بی‌مرض تصویر کرد لیک نه جایی که تحمیل در پیش است قدرت برای به خدمت گرفتن و در خیش نگاه داشتن در برابر آمده و کسی جان را محترم نشمرده و نابرابری ارزشی بر جهان آدمیان است به جهانی که آدمیان خیشتن را انسان خطاب کردند و نامهای بسیار بر دیگران نهادند جای برای زیستن بی مرز نخواهد بود آنجای که به تقسیمشان هر بار کسی را پست و دیگری را افسون خواندند جای برای زیسم به کنار یکدیگر نخواهد بود. آنجای که هر باوری برای خواندن در خیش دست به گریبان تحمیل شده است نمیتوان جهان را بیمرز تصویر کرد و دنیای بیمرز دنیای دیوانگی بیشتر خواهد بود. یگانگی دیوانوار به پیش خواهد رفت و کسی نخواهد دانست که در جهان رویایی در آنچه زشتی به طول عمر بدین روزگاران آموخته ایم چه به روز جانان جهان از حیوان و گیاه تا انسان به جنس و نجات خون و دین و باور خواهد آمد جهان آرمان ها جهان تعلیم است. جهان آموختن و پنجرهای به رویا هاست شاید به مثال زمین روزی را به تصویر بیمرزی نقش دادند لیک دروازه گذشتن بدان رویا رویای آرمان هاست. رویایی که به چشم دوختن و تلاش روزی آرزو خواهد شد و آرزو را به آغوش خواهیم کشید و شاید در دیربازی رویای جهان بیمرز را در جهان آرمان به آرزو بدل کردیم و سرآخر جهانی بیمرز ساختیم که همه آرزوی زیستن در آن داشتند. جهان آرمان و هر رویای دیگر به وقوع خواهد پیوست آنجا که ما بخواهیم برایش تلاش کنیم و از جان بگذریم آنجاست که هر رویای را به آغوش در خواهیم آورد و رویا را زندگی خواهیم کرد برای دانستن آنچه جهان آرمان ها فریاد زده است کافی است تا باری به آنچه قانون آزادی خوانده این بوش فرادهید آنجای که من آزار بر جانان جهان را پذیرفتید چشمها را ببندید و آنچه آرزو کرده اید را تصویر کنید به کنار همباوران هم باوران و هممیهنان فردایتان زندگی کنید و رویای خیش را به آزادی خیش بسازید. آنجا و آن تصویر در ذهنها جهان آرمان هاست. جهانی به آرمان همه جانداران برای زیستن به آزادی و اختیار. آنچه به رویا دیده‌اید را برای خیشتن و برای آیندگانی که محکوم به زیستن در این جهان زشتی هستند تصویر کنید. به تصویر درآمیزید و به تلاش آن تصویر کرده اید را بسازید. نه خیشتن لایق جهان کنون و نه آیندگان لایق به زیستن در مرگ خواهند بود. پس این بار برای خیشتن و برای آیندگان به میدان آیید و رویا کنید.